میخوام ربط سوره نمل را بیان بکنم با سوره گذشته اصل موضوع از سوره فرقان شروع شد که تبارکل لغی بود خداوند بیان فرمود که برکات دهنده و سرچشمه تمام خیر و برکت فقط خدای تعالی است باز در سوره فرقان همیشه دلایل اقلی شما خاندید در سوره شعرات دلایل نقلی خاندید حال در سوره نمل چهار واقع و چهار داستان خدای تعالی بیان می که از این چهار داستان اصل مسئله اثبات میشه از دو تا داستان اثبات میشه که عالم الغیب فقط الله است و از دو داستان دیگه اثبات میشه که مدبر و متصرف و گرداننده امور فقط و فقط خدای عزوجل هست پس وقتی که مدبر و متصرف هم خدا است عالم الغیب هم خداست پس چرا عبادت غیر خدا بشه؟ عبادت هم فقط برای خدا بشه حاصل و خلاص این داستان ها همین خواهد بود این سوره را سور نمل می گوین. این سوره هم سوره مکی هست چل و هشتومین سوره هی هست که نازل شد بران حضرت چونکه در این سوره ذکر نمل آمده مورچه، اون مرچهی که خیرخواه بود خداوند هر خیرخواهی باشه او را دوست داره سخنش را نقل می کنه خیرخواهی بکنه دعوت بده دعوت به خیر بده چه اون دعی مؤمنی باشه ایک مؤمن به نامش هست چه اون دعی پیغمبر باشه شما سورها را ببینید به نام پیغمبران است. سوره ابراهیم، سوره يونس، سوره يوسف، سوره کنم، همه کنم نام همه انبیاء هست، محمد هست چه اون دائی باشه، پرنده باشه، چه اون دائی نامل باشه لیزه در قرآن اهمیت زیاد به دعوتگران و به خیرخان داده شده، معلوم میشه بهترین شغل هم همین شغل دعوت است و من احسن قولا ممن دعا الی الله سخنی چکش زیباتر است از اون سخنی که بسوی خدا فرامیخاند بندگان خدا را لذا چون که این سوره خیرخواهی نمل هست مورچه است لذا این سوره نامگذاری شده به النمل الله تعالی آغاز می فرماید با تمهید با مقدمه تاسین از مقطعات است. تلک آیات قرآن و کتاب مبین، این آیات آیات قرآن هستند و آیات کتاب مبین هستند. معمولاً مزامینی که در ابتدا می به صورت آیات کتاب می آید اونا در کتاب های دیگه هم آمده و مزامین وقتی آیات القرآن آمده به این صورت در کتاب های دیگه نه آمده ویجه قرآن است مخصوص قرآن است و کتاب مبین صفت کتاب چی آمد مبین آمد اشاره بچیه به واقعات نقلی دلائل نقلی است این آیات کتاب در حالی که هدن هدایت اس علما و بشرا بشارت عملا للمؤمنین برای مؤمنین این آیات برای انها بشارت اس مؤمنی کیا هستن الذين يقيمون الصَّلَاةِ کسانی که نماز را پا میدارا عبادات مالی را انجام میدان، و عبادات بدنی را انجام میدان، و یؤتون الزکات وعبادات مالي راهم انجام مدهن زكاة مدهن وهم بالآخرت هم يوقنون وانها بآخرت هم يقين دارن ببنى المشركين انها را قبول لا داشتن نا آخرت را قبول لا داشتن نا زكاة دا نا نماز ال ان الذين لا يؤمنون بالآخرت انجاز زاجر هم رب و تخويف اخرده براي كساني کی ايمان بآخرت ندارن ان الذين لا يؤمنون بالآخرة هم انا كسانكی ایمان به آخرت نمیا ورند زینا لهم اعمالهم ما مزین کردیم آراسته کردیم بر اونها اعمال بدشون را اعمال بد, بد انجام میدن فکر میکنه چقدر اعمال خوب انجام میدیم فهم یعمون انها سرگردان انسان در تزینه سرگردانی تو دنیا اولئک الذين لهم سوء العذاب این افراد برای انها سوء العذاب است بدترین عذاب است در برزخ بحث جهنم نیست سوء العذاب در کجا در قبر در برزخ و هم بالآخرت و هم فی الآخرت هم الاخصرون این آخرت است و آنها در آخرت هم اخصرون هستن زیانکار ترین انسان هستن از نظر حلاکت حلاکت ابدی گرفتار میشن لذا الله تعالی بعد از اینکه وعید فرمود تسلیمی میده پیامبر خودش را اے من این قرآن را شما دریافت میکنید یا وگوین هرچی میگوین بگویند، اما شما این قرآن را دریافت میکنید از جانب اون ذاتی که هم حکیم هست و هم علیم هست و اینکا لطلق القرآن همانا تو بر تو القا میشه قرآن قرآن داده میشی از جانب ذاتی که حکیم هست سخنانش با حکمت است و علیم هست اون دانا هست آگاه هست اذ قال موسی لأهله انی أنست نار این داستان اول است متعلق به موسی علیه الصلاه والسلام این داستان میخانی اما حاصل این داستان اینه مقصد این داستان اینه که اثبات میشه عالم الغیب فقط الله است هیچ کسی بجز الله عزوجل علم غیب ندارد و از غیب خبر ندارد. موسی علیه السلام از مدین داره میره. کجا داره میره؟ قبلا خدمت شمارش کرد. دم دو قولاست. یا داره به مصر برمیگرده پیش مادر و خوارش میخواد بیاد. یا نداره به طرف شام میره. سر زمین آبایی و اجدادیش راه را گم میکنه شب میشه. با همسرش هست نمیدونه کدوم طرف برند از دور نوری میبینند به ظاهر آتشی هست میگه اون آتش من میبینم هر دو میبینند اونجا نزدیکی میرم میگه تو همینجا دور بیست اونجا منتظر بماند من بینم از اونجا راهنمایی. حتما کسی هست که مارا را راهنمایی بکنند بگه که این راه به کجا میره ما باید به کجا بریم؟ موسیا نمیدونه خبر نداره که اونجا چنان راهنمایی هست که دنیا و آخرت رو را راهنمایی میکنه که دنیا چطور راه برو آخرتت رو چطور بساز لذا اونجا وقتی که میرے موسی علیه الصلاۃ والسلام سبحان الله عسوی پروردگار ندا میشه اذ قال موسی لأهله انی أنست نار زمانی که موسی به اهلش گفت ای اهل ای خانواده انی آنست نار من احساس کردم آتش یعنی دیدم آتشی ساتی کوم منها بخبر آتی کوم عرض کردم کلمه الچی جمع مخاطب جمع مذکر ساتی کوم انقریب میا می میارم پیش شما از آن آتش خبری میآورم او آتی کوم یا میارم به شهاب شولی قباس میگن این که آدم به دست میگیره قدیم میرفتند از این چادر به اون چادر از این خیمه به اون خام خیمه اونجا همسایه آتشی روشن کرده کبریت نبود لذا از اونجا یک شالهی می, می آوردن اینجا آتش خودشون را روشن میکرد همین را میگن قبس بله الله می فرماید که شولیم می آورم او آتیكم بشهاب قبس لعلکم تسقلون تاکی شما گرم کنید آتش روشن کنید اینجا بیابان سرد است و ببینیم دور بر کجا داره میره را را بیابین فلما جا وقتی که پیش اون آمد یعنی پیش اون نور آمد نودیا دیا ندا شد از جانب الله عزوجل و جل ام بوری من فی النار یعنی با برکت است اونی که در آتش است یعنی این که در آتش است این در واقع برکتی است هو نور الله این نور نور خدای عزوجل و است و من حولها و مبارک است تمام کسانی که اطراف این آتش استن اطراف کی معاصرت کرده فرشتگان اللہ عزوجل ترتیب داده بود که موسی علیہ الصلات اون جمعیت فرشتگان اطرافش هستند اللہ عزوجل به موسی وحی میکنه و سبحان الله رب العالمین یعنی به این نتیجه میرسیم که خدا پاک است ازهر شریک یا اقول سبحان الله من میگویم سبحان الله الله پاک است اون الله کی رب العالمین هست لذا انجای که تو آمدی ای موسی پیش رب العالمین آمدی لذا موسی گوش کن و رسالت را به عهده بگیر امانت را به بگیر یا موسی انه ان الله العزيز الحكيم ای موسی ہم انا شان انس کے من اللہ سم اون اللہ ہی کے عزیز حس غالب ہے اون اللہ ہی کے کار با حکمت من اون اللہ استم نشانی بت بدم، معجزہ بت بدم، وا الق عصاک عصای رب انداز عصای انداز چی میشے فلما رأها تحت زوکان نه جانن وقتی که اثار انداخت و دید چنان ماری شد که کان نه جانن، اون جان بود، جان میگویند ماری را که خیلی ضعیف باشه، قبلا شما خاندی صعبان بود، اشدهای بزرگ بود، اینجا ماری باریک خدمت درسته، قبلا خدمت شما عرض کردم. که از نظر جس اجدائی بزرگی بود اما از نظر فرز بودن و سریع السیر بودن مثل چی بود؟ جان بود مثل مار بسیار باریک مار تیز شبہا سبحانهو اللہ ما آلوسین جا گفتے و سبحانهو فی شدت حرکتها اللہ عز و داد در شدت حرکتش و ازدرابها مع عظم جثت یا باوجود که جثش خیلی بزرگ بود اجدها بود اجدها خیلی بطی و کند حرکت میکنه اما زمن اینکه اجدها بود خیلی فرز و سریع حرکت میکنه تشبیح اشداد به صغار الحیات سریعت حرکت، به این ماره کوچک سریعه حرکت هستن لذا این جان از نظر سریول حرکت بودن نه از نظر جثه وقتی که دید چنان اجده های تند و تیزی هست وللا مدبرن موسی فرار کرد و پشت داد تا جای میتونست فرار میکرد ولم یا اقیب پشت خودش اصلا نگاه نکرد ببین مردم میگن معجزات دلیل قدرت پیامبران است معجزه در دست پیامبر نیست در اختیار پیامبر نیست پیامبر از معجزه خودش فرار میکنه والله مدبر ولم يعقب پشت سر نگاه نکرد خدا تعالی صدا زد یا موسی لا تخف ای موسا تو نترس اینی لا یخاف لدي المرسلون مرسلون فرستاده شدهگان نزد من نمیترسند تو چرا میترسی نترس رب تو با تو هست نه الا من ظلم این استثناء استثناء منقطع هست لیکن کسی که ظلم بکند بر خودش کسی که شرک بکند ثم بدل حسنم بعد سو بعدا تبدیل بکند اون را کار خوب کار نیک با اعمال نیک بعد سو بعد از بدی یعنی توبه بکند بعد از بدی فانى غفور رحيم هم انا من پروردگار برای او بخشاینده و مهربان هستم لذا ای موسی این رسالت را بگیر این پیام را بگیر و معجزه دوم را هم بگیر و ادخل يدك في جيبك دستت را داخل کن در گریبانت و بعد خارج کن از زیر بغل تخرج بيضاء من غیر سو دستت خارج میشه سفید درخشنده نہ سفیدی زشت من غیر سو نہ سفیدی مثل پیس و برس بلکه یک معجزه دیگری است دستت دست احساس میکنی که مهتابی هست لام هست لذا انار بگیر ای موسی و برو فی تسع آیات الی فرعون و قومه الله می فرماید ما موسی را فرستادیم فی تسع آیات ای ارسلنا موسی فی دس آیات نه آیه ما این نه آیه را قبلا خواندیم که مسیح علیه السلام این آیات را داشتند دو تا اینها بودند پنج تا اونایی که شما خواندی فرسنده علیم متوافان والجراد والقمل والضفاده والدم دو تا ای دیگه اینکه یکی که سنگ را زد دوازده چشمه شد یکی که آسار زد دریا متوقف شد زا الله میفرماید فی تیسی آیات الی فرعون و قوم و بعضی میگن چون اون سنگ مال بنی اسرائیل بود انکه موسیٰ صلی اللہ علیہ دعا کرد قهد آمد بعدا دعا کرد قهد برطرف شد اون از نومی انہم کانو قوما فاسقین همانا فرعون قوم فاسقی داشت قوم سرکش و متمردی داشت فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیاتنا مُبْصِرَةً زمانی کی موسی پیش آنها آورد آیات مارا هم با, آیات با آیات ما آمد پیش آنها آیات ما آمد آیاتنا فائل هست زمانی کی پیش آنها آیات ما آمد در حالی اون آیات مبصرتا مجب چی بود؟ مجب روشنی بود یعنی چشم انسان رباز می کرد دید انسان را باز میکرد کرد چنان آیات و موجزاتی که حقیقت روشن میشد قالوها غا سحر مبین آنها گفتن این جادوی آشکار هست به موجزات موسی گفتن جادو هست و جحدو بها قرآن انجا می انکار کردند اینها را و استیقنتها انفسهم اما خودشون یقین داشتند شفرعونی ها یقین داشتند نفسن یعنی ذاتن که این پیغمبر است این, این موجزهش هست این خدا فرستاده باوجودی که یقین داشتن خب چرا ایمان نیاوردند ظلمن و علوو ظلمن ایمان نیاوردند واقعا بر خود ظلم کردند و یکی دیگه و تکبر کردند تکبران ایمان نیاوردند پس معلوم میشه که اکثر اهل باطل از حقانیت پیامبران، از صداقت پیامبران اطمینان داشتند می دونست این پیانبر خداست فرعون را خدا می فرماید یقین داشت و استیقنت ها امروز هم خیلی از اهل باطل هستند که دشمن دین اسلامند دشمن قرآنند دشمن توهیدند. اما اونهایی که سواد دارن علم دارن مطالعه میکنن یقین دارن قرآن حق یقین دارن دین اسلام دین خداست و فرستاده خداست اما بعض هم از روی تعصب ایمان نمی آورند از روی عناد ایمان نمی آورند واستقنتا انفسهم ظلم و علو اما خداوند می فرماید فانظر کیف کن عاقبت المفسدین ببین عاقبت المفسدین چی شد اینایی ای که فساد را انتخاب کردند خب شما خان دید که چی شد خدای از و غرقشون کرد نابودشون کرد با زلت و خصت مرگ به سراغشون آمد هرچه دست و پا زدن داد و فریاد زدن که ما ایمان میاریم دیگه گفته شد دیر شده الان بتمرگید و برای عذاب آخرت آماده باشید خب این بخش اول بود قصه اول بود در رابطه با موسی علیه الصلاه و السلام و فرستادن موسی به سوی فرعون داستان دوم را می‌خونیم ولقد اعتینا داوودا و, داوود و سلیمانا علما ما به و به سلیمان علم دادیم دانش دادیم ببین دو دونو علم خدا به انها داد هم علم دین داد و هم علم کشورداری داد چونکی انها هر دوتا هم پیامبران خدا بودند و هم پادشاه بودند خداوند به اونها ملوکیت داد یکی بعد از دیگری لذا اللہ می فرماید ما این نعمت حال دادیم انہا سپاس گزار شدند وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين انها الله را اینگونه تعریف کردند الحمد لله تعریف و مر الله را آن الله که فضلنا مارا فزیلت داد بر بسیاری از بندگان مؤمن خودشمارا فزیلت داد ما بر تری داد و وارث سلیمان و داود سلیمان وارث داوود شد داوود که وفات کرد اللہ تعالی بسلیمان هم پادشاهی داد هم نبوت داد وقال یا ایوها الناس علمنا منطق طیر بسلیمان علیه صلاة و والسلام. الله عز و جل خیلی ویجگی ها داده بود علوم داده بود یکی اینکه سلیمان منطق طیر بلد بود یعنی سخن پرندگان را زبان پرندگان را پرندگان وقتی که اللہ را مدح می سنا می خاندن تعریف می سلیمان متوجه می شد و دیگه خدای از و به سلیمان خواست زیادی داده بود بعد تابع سلیمان بود به چی صورت تابع سلیمان بود که هر وقتی که سلیمان میخواست بره به جایی لازم نیست نبود که در اون زمان مراکب اون زمان را بگیره اسب و شطر را ببینی بلکه سلیمان بر تختش می نیشست بقیه عراقین می نیشستند هر جا که می خواست بعد را اشاره می کرد و دستور میداد، باد بعد می برد را بعد می برد مسیری را قرآن می گه مسیری یک ماه را در نصف روز می برد مثلا از اونجا می خواست به جایی بره ملک سبا بره در طول یک ماه اونجا می رسید سلیمان علیه صلی و از صبح تازور بی اونجا میرسید این ویژگی دوم سلیمان علیه سلات سوم السلام این بود که سلیمان جنات را مسخر کرده بود خداوند جنات را برای او تابع قرار داده بود این جنات از اونها از سلیمان کار می گرفت دونو کار اونجا که میاید بعضی که تمرد داشتند سرکش بودند اونها را به زنجیر بسته بود اونها را زنجیر زولانه کرده بود اونها زندان بودند بعضی دیگر را برای کارهای بنایی و ساختمانی مثل ساخت و ساز مسجد الاقصا هم میخانیم که سلیمان از اونها کار میگرفت و بعضی ها را دستور میداد تو دریا غوته بزنند چون سلیمان پادشاهی داشت ملکی داشت حکومتی داشت حکومتش نیاز به سرمایه داشت نیاز به اقتصاد داشت لذا جنات در واقع برای او جواهرات رمی آوردند سرمایه جمع می کردند خدا تعالی دریا را پر از سرمایه کرده امروز تمام کشورهایی که دریا دارند اقتصادشون بهتره. چون هر چی هست طلا و جواهر از طلا سفید نفتم هست خدا می دونه در آینده چیه منافع دیگر استخراج بشه لذا الله تعالی همه اینها را به سلیمان داد و وارث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطير ای مردم ما آموزش داده شدی منطق طیر زبان پرندگان و اوتینا من کل شيء هر چی به ما داده شد هر چیزی که برای سلطنت و حکومت لازم بود استغراق اضافی هست استغراق عرض کنم که کلی نیست ان هذا له الفضل المبين همانا این فضیلت آشکاری هست که سلیمان داده شد وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير جمع شد برای سلیمان تمام لشکر از جن و انسان و پرنده همه جمع شدند فهم یوزعون انها توضیح می شدن، تقسیم می به بسطلاح دستبندی می شدند و اینها آمدند با ترتیبی که سلیمان داده بود حتی اذا اتو علا واد النمل حتی وقتی که آمدن بر اون وادی کی اون وادی همه چی بودند؟ مرچه بودند اونجا مورچه زیاد بود قالت نملتن یک نملی ای گفت اینجا معلوم میشه که ملکی انها بود قالت قانت نملتون نملی گفت یا ایوهن نملو دخلو مساکینکم ای مرچه داخل سوراخاتون بشید داخل خانهایتون بشید مساکینتون بشید لا یحتمنکم سلیمان و جنودهو شماره سلیمان و لشکریانش لگت نکنند زیر پا له نکنند مگه سلیمان و لشکریانش عزار میده مورچهارا مخلوق خدا را میخواند که از بین ببرند نا و هم لا چون نه نمیداند و هم لا یعنی یعنی اینجا این مورچه ملکه مورچها سلیمان و اصحاب سلیمان را مقصر نمی دانه اصحاب سلیمان را و یاران سلیمان را مقصر نمی دانه میگه ندانسته یک وقتیش را لگت نکنی اونا قصد بدی ندارند و هم لا شروع انجا آلوسی رحیمه الله از این جمله قرآن مجید خیلی متعصر هست و از این جمله که مورچه ها گفتند میگه کاش که بعضی از مردم ادب را از مورچه ها یاد میگرفتند بعضی مردم که زبانشون نسبت به اصحاب و یاران رسول الله دراز هست به اصطلاح بد و بیرا میگویند کاش از مورچه یاد میگرفت که مورچه اینقدر ادب داره که میگه این اصحاب سلیمان قصدی نداره اصحاب سلیمان آدمان خوبی هستند و هم لا اما در عالم ندانمکاری در حالتی که اونا متوجه نیستند شاید را زیر پا کنند عبارت آلوسی ربی بیر میگه و لیت فی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای کاش کسانی که اصحاب رسول الله را تانمی زنند و بر اصحاب رسول الله خورد میگیرند و ایراد میگیرند کاش اونا چی کار میکردند تا اصحاب ها و تغذیه میکرد ازی مورچه مورچه سعی میکنه که نسبت به اصحاب سلیمان توی نشه فکف عن ذالک و احسن العدب کاش مثل مورچه دهان خودش را کنترل میکرد و از بی ادبی دست میکشید ادب را رعایت میکرد لذا ببینید ایمورچه مورچه بچه احتمامی یا ایها النمل ای مورچه‌ها مساکنکم مساکن داخل بشید لا یحتمنکم سلیمان شمارا لگت نکونت زیر پاله نکون سلیمان ولشکر سلیمان اصحاب و دوستان سلیمان در حالی که وهم لا یرجعون لا یشعرون انها نمیدانند الله عز وجل صدای مرچرا معجزه تا گوش سلیمان رساند، فتبسم ضايعا من قولها سلیمان تبسم کرد در حالی که خندید است خانش که مرچ چی داری میگه و انجا سلیمان علیه و السلام از پروردگار حکومتی خاص دعا کرد خدایا به من چنان حکومتی بده ها اون حکومت بعدن میاد اینجا گفتیا الله بمن این به من این ها را دادی فرندگان با من هستن جنات هستن انسان ها هستند حتی از احوال مورچه ها هم خدا من به سلیمان خبر داد لذا از خدای تعالی توفیق شکر خواست منش اینه که هر نعمتی که خدا به ما داده و خیلی بندگان دیگه این نعمت را ندارند علم هست فضیلت هست مال هست زرنگی هست چیزایی که خدا داده بر اینها باید شکر خدای عز و جل رب وقال رب اوزعني گفت بار اله اوزعنی در قسمت من قرار بده مقدر من قرار بده یعنی بمن توفیق بده ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علیه ان من شکر گزار باشم شاکر باشم نعمت ترا ان نعمتی که تو بر من انعام کردی وا علی و اون نعمتی کی بر پدر و مادر من انعام کردی خدایا بہ من توفیق که من شاکر ان نعمت ها باشم و ان اعمل صالحا ترضا و بعر الہ بمن توفیق بده من عمل صالح انجام بدهم چنان عمل صالحی که تو برازی باشی تو بپسندی تو خوشنود باشی و ادخلنی برحمتک و بار من رب بار رحمت خاصت داخل بگردان فی عبادک الصالحین در بندگان صالحت مرا قرار بده لذا سلیمان علیه و السلام این دعا را کرد و بعد از اون لشکریانی که با سلیمان بودند همه را سلیمان تفقد کرد تفقد یعنی جستجو بررسی به تعبیر ساده ما حضور غیاب گرفت کی حاضر کی غائبه معلوم میشه که یک مربی یک استاد یک راهبر یک کسی که در رأس هست همیشه باید همراهان خودش را تفقد بکنه فلانی چرا این روزا پیدا نمیشه اگر مشکلی داره به مشکلش رسیدگی بکنه اگر مریض به بی عیادتش بره اگر مسافرت خوب براش دعای خیر بکنه چرا پیش ما نمیاد رسول الله صلی الله علیه و هم عادت شریفش این بود که گاه بعضی از اصحاب را نمیدید می گفت که مالی لا ارا فلان چرا فلانی را نمی بینم کجاست صحابه می گفتن یا رسول الله سفر رفته یا می گفتن مریضه یا می فلان عذره خلاصه ان حضرت هم همراهان خودش را میشه تفقد کر کرد باید تفقد بشه باید هر از گاهی بپرسه که این دوستان ما کجا هستن اینا چرا پیداشون نمیشه؟ شید لذا و تفقدت وقتی که تفقد کرد پرنده را ندید پرنده هدهد را سلیمان علیه صلی و السلام نیافت فقال مالی لا ارال هدهد به چی دلیل من نمی بینم هدهد را چی شده مرا؟ معلوم میشه لشکر زیاد بود که میگفت شاید او هست و من نمی بینم امکان من الغائبين یا یعنی این غائبین از غائب شده بهش گفتم بله سلیمان ایشون نیست غایب حضرت سلیمان علیه الصلاه و السلام گفت که من اگر بیاد من را عذاب میدم شکنجه میدم زندانش میکنم یا ذبحش میکنم اگر دلیل و توجیه درستی برای غیبتش داشته نباشه کجا رفته لا عذبا نه عذابا شد حتما حتما اورا عذاب میدم عذاب شدید او لا اذبحانه یا اورا ذبح می میکشم او لا ني بسلطان مبين یا برای من باید بیار دلیل قوی مدرک روشن فکر میکنیم این مخلوقات انها درک ندارن شعور ندارن فقط معم که همه چیز داریم نه؟ اونارم الله عز و جل به اندازه خودشون داده ولی ما زبانشون را نمیفهمیم. لذا سلیمان علیه صلی وقتی که این بررسی را کرد و این تحدید را کرد منتظر ماندن لحظه بعد آمد هدهد آمد فما کث غیر بعید یعنی زیاد طول نکشید تا اینکه حد, حد آمد حد, حد آمد چی توجیه آورد گفت ای سلیمان از اینجا معلوم میشه سلیمان باوجودی که پادشاه بود پیانبر بود خدات خیلی نعمت ها بهش داده بود جنات در اختیارش پرندگان در اختیارش کوه با او آواز می خاندن. بعد در اختیارش وید صدای مورچه را هم می شنید اما علم غیب نداشت علم غیب نداشت شما می پرسید پس از کجا در مورچه مرچه متوجه شد اللہ عزوجل از طریق وحی بهش گفت که مورچه داری این طور بیگه هر چی که می با وحی الهی میگویند. لذا علم غیب نداشت و الا اگر علم غیب داشت می دونست که این ہدھد به ملک سبا اونجا رفته و الان می از غیب خبر نداشت و ببینیم خود م... هم اعتقادش این که سلیمان غیب نمیداند میگه ای سلیمان من امروز اخباری را دیدم و خبر دارم که تو خبر نداری چیزهای را احاطه کردم که تو نداری فقال احد بما لم تحتب ای سلیمان من احاطه کردم یعنی خبر گرفتم اون چیزهایی که لم تو حدبه تو احاطه نکردی یعنی علمت تو لم تعلم چیزایی من میدونم که تو نمیدونی چون من رفتم دیدم تو غیب نمیدونی که تو بدون چی چه خبره یا بلغت ما لم تبلغ انت ولا جنودك من به جای رسیدم که تو نرسیدی اونجا رفتم خب چیه اون میگه وجئتك من سبع بنبعي يقين من از ملك سبع آمدم سبع در يمن است از ملك سبع آمدم بنبعي يقين با اخباري يقيني اخباري يقيني شكي نست اني وجدت امرأة تملكهم من ديدم زنراك مالك يعني بر اونها حکمی رانت و اوتیت من کل شئی او از هر چی داده شده یعنی همه چیزهایی که پادشاهان و ملوک نیاز داره اون داره تخت داره قدرت داره اسلحه داره ارتش داره کل شئی که نیاز داره و اوتیت من کل شئی و یکی از نشاناتش اینه که و عرش و نظیم تخت خیلی بزرگی داره که روی اون تخت میشینه و حکومت میراند. اما یک چیزی که مرا آزار داد ای سلیمان ببینید این پرندگان حیوانات همه یک تا پرست اینا مشرک نیستن مثل ما انسان ها و جنات وجدتها وقومها يسجدون للشمس دیدم اورا و قوم اشراق سجد می کنن برای خورشید من دون الله بغیر از الله انھا خورشید را عبادت می الله را عبادت نمیکنند. كنند و زينا لهم الشيطان اعمالهم شیطان اعمال آنها را براي آنها آراست کرده براي آنها مزين کرده فصدهم عن السبيل شیطان آنها را از راه توحید از راه ایمان باز فهم لا يهتدون آنها بر هدايت نيستند بر شركند مرچنا نا حد حد پرنده ناراحته ناراحته که چرا اینا خورشید را عبادت میکنند چرا اللہ را عبادت نمیکنند و بعد ببین چه توحیدی میگه اللہ یسجدو للہ اللذی یخرج الخبع فی السماوات والارد چرا سجده نمیکنند این اللہ را این سخنرانی و این بیان توحیده هود هود اس الله بر ایمان تو نقل میکنه حضرت شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله علما کی دیدن میگفتند استاد استاد ما این آیه را میخوند و میگفت کہ ہائے ہود ہود کجائی که من دهنت رب بوسم کہ تو این با این زیبایی توحید خدا را داری بیان میکنی ایک پرنده است ناراحت میگه چرا این مردم خدا را عبادت نمی کنند؟ چرا این مردم خورشید را عبادت می کنند؟ چرا برای خورشید سجده می چرا غیر الله را سجده می کنند الله یسجدو چرا سجده نمی کنند لله برای الله آن الله کی یخرج الخبء فی السماوات والارض خب میگویند هر چیزی که مخفی باشه اونایی که مخفی هست از چشمه های ما پینهان هست مثلا در آسمان مخفیاتش المطر باران مخفی زمین چیه؟ تو زمین چی مخفیه که ما نمیبینیم بعدن میبینیم از کنم خدمت شکم بزر هست بزر و دانه ها هست که باران وقتی که میاد این بزر تبدیل به نبات میشه، تبدیل به گیاه میشه، تبدیل به علف و سبزی میشه چرا سجده نمی کنن این مردم بی انصاف الله را اون اللهی که به وسیله بارانی که از آسمان میاد نباتات و تمام سبزیجات زمین را میرویاند معنی میشه یخرجو الخبعف السماوات والارض بیرون میکند تمام مخفیاتی را از آسمان در آسمانها و زمین یعنی از آسمانها باران میاره و از زمین نباتات و الافزارها را میرویاند و یعلم ما تخفون و ما تعلنون و می اون الله ما تخفون تمام اون چیز که شما مخفی میکنید هر چیزی که شما مخفی میکنید در دل دارید اون الله میداند وما ما تعلنون اون چیزی که شما علنی میکنید شما آشکار میکنید اون رحم الله میداند اون الله الله هست که الله لا إله الا اللہ اللہ ذاتی هست که هیچ معبودی لائق عبادت نیست لائق پرستش نیست اللہ مگر او فقط و فقط لائق پرستش او هست اون ذاتی هست که رب العرش العظیم رب عرش بزرگ هست عرش بزرگ مالی او هست لذا سلیمان من از این ناراحتم چرا اینها این خدای بزرگ را سجده نمی کنند و دنبال مخلوق خدا یعنی دنبال خورشید افتادند و خورشید را سجده می کنند سلینا سلیمان علیه الصلاۃ وقتی که این خبر را شنید براش عجیب بود چون کتابحال خبر نداشت از ملکه سبا از بلقیس به اصطلاح بلقیس خبر نداشت که اینجا در نزدیک من برای خودش قدرتی داره حکومتی داره و اونجا حکم میراند و خورشید پرستند و مظاهر پرستند اما سلیمان گفتی وقتی این حد, حد مبالغه نکند افراد نکند گفت باشه ما امتحان میکنیم ببینیم که راست میگی یا نه قال سننظر ما حتما نگاه میکنیم اس دقت راست میگیم كنت من الكاظم یا دروغ میگی راست دروغش معلوم میشه اول این نامه بردار بردار نامه‌ای نوشت اون پادشاهه سبارا ملکه سبارا به ایمان و توحید و خدا پرستی و یک پرستی دعوت داد کار انبیا دعوت هست اذهب بکتابی هذا این نامی من را ببر فعلقه بی انداز اونجا الیهم بسوین ثم تول عنهم بعدا از اونها برگرد فانظر ماذا یرجعون ببین جوابی میدن چه پاسخی میدند خب نام را برد نامی را برد اونها وقتی که نام را مشاهده کردن برداشتند اون زن اون ملکه سبا مشاوران خودش را خواست این از عقلانیتش است آیاتی که ما انشاءالله می در درس فردا بیشتر می معلوم میشه که این زن خیلی فهمیده بود عقل بود یکی از دلیل عقلش اینه که به تنهایی تصمیم نمی گرفت ببین الان اینجا نامه براش آمده تصمیم به تنهایی نمی گرفت. تمام ارکان را تمام مشاوران را صدا زده جمع شدن میگه بشوار کنی چیکار بکنیم با این پدیده جدید قالت یا ایوها الملع اینی القیه الی کتاب کریم ای درباریان من ای اعضای کابین همانا برای من انداخته شده کتاب کریم نامه بسیار معزز کریم معزز بودنش و محترمان بودنش از کجاست؟ از اینجاست ابن عباس میگه که مهر داره قال قد فسر ابن عباس و قتاده و زیر ابن محمد الکریم بالمختوم نام وقتی که معتبر باشد مهر هست درش بسته است این چنان نامه مهر شده ای هست خب محتوی نامه چیه داخل نامه انه من سلیمان همان این نامه از جانب سلیمان هست این روش نامه نگاری را درست و انه بسم الله الرحمن الرحیم همان شان این اس کہ استعینو بسم اللہ کمک بگیرید به نام الله از کسی دیگه کمک نگیرید کمک بگیرید از بنام الله آن الله کہ رحمان حسب بخشاینده است و مهربان است الله تعالی علیا اما مزمون این کہ الله تعالی علیا بر من تکبر نکنید خودتون را بزرگ نپندارید سرکشی نکنید نافرمانی نکنید وقتونی مسلمین همه‌تون پیش من مسلمان بیاید، یعنی بیاید موحد بشید مسلمان بشید دیگه غیر الله پرست نشید پیش من و من با باشما می جنگم قالت ايها الملأ افتونی في امري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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وَكَذَلِكَ يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فَنَاظِرَتُمْ بِمَا يرجع الْمُرْسَلُونَ در آیات گزشته در ارتباط با سلیمان علیه الصلاة والسلام و نامی سلیمانی بملکی سبا بسیار بل یا يا ذکر کرده اند خواندیم که از ایشون خواست در اون نامه که تسلیم بشه و مسلمان بشه بر دین توحید بر دین یک تاپرستی قرار بگیرد وقتی که این نامه به او رسید اون با ارکان سلطنت خودش مشوره کرد قالت یا ایوها الملع افتونی فی عمری ای درباریان ای اعضای کابینه به من جواب بده درباره عمرم یعنی مشوره بده به من در مورد این مسئله ما کار بکنم ما كنت قاطعه امرا حتی تشهدون این علت هست چون که من به صورت قط کاری انجام نمیدهم و به صورت قط کاری نمی کنم که شما مشوره بدهید تشهدون یعنی در از نظر مشوره شما حضور داشته باشید اون کار شما تا زمانی که مشوره نلहीत من کاری را انجام نمی دهم یکی از دلائل عقل مندی این ملکی همین بود که اعضای خودش را مشوره می گرفت و بدون مشوره اون کاری انجام نمیداد. قالوا قالو نحن الو قوة و الو بأس شدید جواب ملع که این جواب جوابی هست که در واقع در این جواب انها وفاداری خودشون را اعلام میکنند که اگر شما نیازی به جنگ داشته باشید ما این آمادگی را داریم ما از حرف شما سرپیچی نمی کنیم کاملا آماده ایم در خدمت شما باشیم قدرتش را هم داریم قالو نحن اولو قوت و اولو بأس شدید ما دارای قدرت هستیم و دارای جنگ شدید یعنی سخت جنگجو هستیم جنگجویان سختی و جنگجویان شدیدی ما داریم افرادی که آمادگی دارن اما باوجود این که ما آمادگی داریم دستور دستور شماست و الامرو الیک امر بستور شما برمی گردد دستور شماست ما ماذا تعمرین ببینید که شما چه امر میکنید. اما ما فقط همین که اعلام امادگی داریم معلوم میشه که به ملکه سبا گزارش داده بود دند که سلیمان علیه سلات و سلام چنان قدرتی دارد چنان ملکی دارد و حکومتی دارد که هم جنات در اختیار او هستند هم بادها و توفانها در اختیار او هستند و هم لشکر بسیار قوی دارد از نظر ظاهری تحقیقات را کرده بود و احساس میکرد که توان مبارزه و توان مقابله با سلیمان علیه السلام را ندارد به همین خاطر بر اساس اون تحقیقات خودش گفت قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتاً افسدوها همان پادشاهان وقتی که داخل قریه بشن داخل شهری بشند اون به فساد میکشند. چنان فسادی که و جعل عزت اهلها اذلا با شخصیت های اهل اون شهر را عزیت اهل اون شهر را پست میکنند زلیل میکنند خار میکنند تو زندان میذارند. و کدالکه یافعلن اینگونه عمل میکنند اینگونه برخورد میکنند و من به صورت آزمایشی به صورت امتحانی نام من به سوی اونها هدیه میفرستم مشخص بشه که آیا این پادشاه یعنی ملک سلیمان هست آیا این پادشاه دنبال مطامه هست، دنبال مادیات هست، دنبال پول هست یا همون طور که تو نامهش نوشته ادعا کرده واقعاً دنبال یک چیزی هست یک دیدگاهی هست، یک عقیدهی هست به این خاطر ابتدا لازم دانست که سلیمان علیه السلام را امتحان بکند و اینی مرسلتن الیهم بهدیتن همان آمان فرستنده هستند بیسوی آنها هدیهی هدیه حدیع میگن که مقداری تلاف فرستاد فناظرتوم به ما یارجوال مرسالون میبینیم که مرسالون چکار میکنند به چی چیزی بر میگردند یعنی نکه فرستاده شدند سفر ایمان نمایندگانی ما با چی بر این هدیه را اون قبول میکنه نمیکنه دنبال همین نهادایی هست وقتی که از اون جادیه را بردند اهل تفسیر نوشتند والله اعلم که سلیمان علیه صلاتو و سلام متوجه بود که می‌خواهد که به وسیله مادیات و به وسیله هدیه و طلا و جواهر می‌خواهد که من امتحان بکند لذا سلیمان علیه صلاتو قبل از اون دستور داده بود که در مسیر همین نمایندگان کسانی که به عنوان نماینده میاند و هدیه میارن در مسیر اینها همیش طلا و زر فرش بکنن بهترین قالی نه فرش بکنن اطراف طلا و جواهرات فراوان بیندازن بریزن تا اونها ببینن که اینجا ما خیلی فراوان داریم وقتی که اونها آمدند و جواهراتی که در مسیر به عنوان تزیین به کار برده شده بود اونها را مشاهده کردند و متوجه شدند که حدیه ما در مقابل اون که اینها دارند هیچ چی نیست لذا سلیمان علیه صلی اللہ هم به اون نمایندگان گفت به سفرایش گفت گفت که به ملکه سبا بگید که اون که خدا به ما داده از اون که به شما داده خیلی بهتره خدا به ما فراوانتر داده ما از نظر سرمایه مشکل نداری ما از نظر مادیت مشکل نداریم اما هدف ما چیزی دیگه هست که هدف را برای اونها گفتن و تهدید کردن که اگر تسلیم نشه اگر نپذیرت اون وقت من با چنان لشکری میایم که نتونه باش مبارزه بکنه نتونه باش مقابله بکنه فلما جاء سليمان زمانی که پیش سلیمان آمد قَالَ أَتُمِ الدُّونَنِ بِمَالٍ آیه شما مرا امداد می کنید یاری می کنید با مالی که فما آتانی الله یعنی شما مرا با مالی یاری می کنید که لی اتروککم على شرککم تفسیر امنی کسید گفته بما مال می کنید شما را بزارم شرک بکنید فما آطانی الله و خیر و من معتااک اونچه که خدا به من داده بهتر از اون چیزی که به شما بل انتم به حددیتی تفرحون شما اون شما حد خودیتون خوش باشید و به او افتخار بکنین ما خیلی بهتر داریم. من دنبال پول نیستم دنبال مادییت نیستم ااررج الم بسوها برگرد و به اون بگو. كي فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها حتما حتما من میم پیش اونها با چنان جنود و لشکریانی که توان مقابله و مبارزه برای اونها نیست با اون جرود ولا نخرجنهم منها اذله وهتونه تمن بیرون میکونیم اونها را از اون شهرشون با یعنی از ملک سبا با ذلت با خاری وهم صاغرون با ذلت که انها دیگر تسلیم بشه اصل ساغیرون هم ذلت و پستی را میگند لذا وقتی که خبر را دادند از سیاق معلوم میشه که ملکه سبا تصمیم گرفت که حضورم پیش سلیمان بره و از نزدیک باش مذاکره بکنه و تصمیم جنگ را کنار گذاشت لذا گفت که ما میعنی اینجا وقتی که سلیمان آلے سالات و السلام متوجه شد و با خبر شد که انها دارم میایند، سلیمان آلے سالات و السلام میخواست که قدرت خدا از زوجال ربهش نشان بده که یاری خداوند کمک خداوند با انها هست که با انها قدرت فوق العاده ایجاده. به این خاطر سلیمان آلے سالات و با اعضا و ارکان سلطنت مشوره کرد اول گفت که چه کسی میره تخت او را برش میاره چون ملکه سبا اون تختی که بر اون نشست تخت شاهیش معروف بود در اون گزارش خودش خود هد هم گفت که چنین تختی دارد تخت بسیار ولها عرشون عظیم خیلی بزرگه. لذا وقتی که مشوره کرد که چه کسی میتونه بیاره یک دیوی از دیوها جنی از جنیها او گفت که من میارم من قبل از این شما بلند بشید تو همین جلسه هستید من فورا اون رو میارم برای شما حاضر میکنم و من میتوانم این کار را بکنم اما سلیمان علیه و سلام از او نپذیرفت چرا نپذیرفت الله و عالم گرچه بعضی گفتن که این زمان دیر هست قبل ان تقوم من مقامکا اما زیاد این قوی معلوم نمیشه بعضی هم میگن که سلیمان علیہ السلام نخواست از جنات در این بابکار بگیرد و یک نکته هم که قابل ذکر است شیاطین قابل اعتماد هم نیستن به همین خاطر او دفل داخل مقدر میکرد گفت اینی علیه لقوی امین من هم قدرتش را دارم و هم امینم خیانت نمی کنم چونکه اون تخت چنان تختی بود که جواهرات داشت و مرسع و مزیم بود با تلا تلاکوب بود سلیمان شاید بیمش و احساس این بود که این خیانت نکنه چون این قوام مورد اعتماد نیست سلیمان علیه الصلاۃ و السلام شما آیاتی که درباره سلیمان و کار گرفتن جنات هستند می‌خوانید سلیمان علیه الصلاۃ و السلام از جنات کار دینی هیچ وقت نمی گرفت کارهای اقتصادی، کارهای سخت، کارهای سخت و ساز، بنایی لذا اعتماد نبود و یا شاید دلیل دیگرش اینکه میخواست که از خود افراد خودش، از انسانها کسی این کار را بکنه، ولی بالاخره کسی دیگر اونجا گفت: قال الذي عنده علم من الكتاب. اون کسی که علم کتاب داشت، او گفت که من قبل از اینکه اصلا پلک بزنی، چشم بزنی، به اندازه یک چشم به زدن دستور بده من میارم. و معلوم شده که بعدا به همون سپرد اون بیاره خب این کسی که الذي عنده علم من الكتاب کی بعضی میگویند که اکثر مفسرین میگن این وزیر سلیمان هست معروف هست آسف بن برخیا هست عنده علم من الكتاب کتاب یا تورات مراد هست یعنی علم تورات داشت یا کتاب دیگر از کتاب هایی که در اون زمان بود علم اون کتاب داشت گرچه انبیاء بنی اسرائیل بعد از موسیٰ سلام اللہ شریعت همه و کتاب همه تورات بود سلیمان هم بر تورات عمل میکرد بعضی اینا گفتن اما شیخ بزرگوار ما شیخ حسین معتقده بعضی دیگر از مفسران هم همین اعتقاد دارند کہ اللذی عنده علم من الكتاب جبرائیل امین است اللذی عنده علم من الكتاب کیه جبرائیل امین است و مراد است کتاب لوحی محفوظی چون جبرائیل همیشه در کنار همه انبیاء الهی بوده خدا دستور داده کہ در کنار شن باشه جبرائیل هم بود جبرائیل گفت که شما همینجا نشستید چشم به هم بزنید من میارم بزا جبرائیل برای سلیمان آورد والله عالم بالاخره اولین کاری که سلیمان علیه صلاة و سلام کرد این بود که تخت را برایش آورد و بعد از اینکه تخت را آوردند دستور داد که این تخت را مقدار تغییر بدند دکورش را ظاهرش را تلاکوبیش را ترسیع و تزیینش را اون را مقدار تغییر دادند که وقتی که ملکه سبا تختش را دید سلیمان اینجا میخواست حوشش را و حضاقتش را امتحان بکنه گفت که این تخت شماست یا تخت شما اینگونه هست مثل او هست این وقتی که نگاه کرد از بعضی نگاه ها این تخت تخت خودش بود از بعضی نگاه ها نبود لذا کلمه گفت که اون کلمه کلمه درستی بود که انهوهو اینم این جواب هم دلیل ذکاوتش بود دلیل باهوشیش بود که اگر اون بود هم درسته که انهوهو اگر نبود هم درست چن تشبیہ داد علی ای حالن قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها گفت ای ملأ ای درباریان خدام یک از شما پیش من میآورد تخت اورا قبل ان یاتونی مسلمین قبل ان يكونها تسلیم بشن پیش من بیایند قال عفریت من الجن افريت والدیوی از جنات گفت انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك, ورم برخز مقامك مجلسك. مجلسك من میاورم برایت قبل از این که برخیزی از همین جایت مقامك یعنی مجلسك این مجلسی که داریت هنوز بلند نشود مجلس برخاص نشود ميارم و انی علیه لقوی امین من بر اون قوی هم استم دارم امین امستمگر چه مرصع با جواهر قیمتی و ارزشمند است من امینم دست نمی زنم قال الذي عنده علم من الكتاب گفت آن کسی که نزد علم کتاب بود علم کتاب یا آسف بن برخیا یا جبرئیل امین انا اعطيك بهی قبل ان يرتد اليك طرفک من میارم قبل انك ترفت یعنی پل که چشمت, چشمت برگردد به هم بزنی میارم فلما رااه مستقرا عنده همون طور فوراً موسی سلیمان دید که اون تخت مستقر هست قرار دارد کنار او و گذاشته شده سلیمان خدای عزوجل را شکرگزاری کرد که خدا چه نعمتی چه امکاناتی و چه ثوان به او داده بود قال الذي قال هذا من فضل ربي این از فضل رب من هست، فضل پروردگارم هست ابلوانی تعمارا بیا حمایت عشکر اکفر، آیا من بنده شکوری او هستم سپاس او هستم یا من کفران میکنم؟ بله و من شکر ان ما شککر اما هر کسی که شاکر باشد این شکر این تشکر به خودش هست. به خدا چیزی نمی رسد اما و من کفر هر کسی پاس باشد ناشاکر باشد فا این رب غنی کریم همان رب من نسبت به او بینیاز هست و رب من کریم هست نیازی به او ندارد و اون رب کریم از کنم خدمت شما که خودش دارای اعزاز هست دارای کرامت هست دارای بزرگی و عظمت هست نیازی به اون بندش که شاکر باشه سپاس گزار باشه ندارد قالا نکی لها عرشها این امتحان فراست ملکه سبا است. یعنی عرشش را برای اون نامعلوم و نامشخص کنی با تغییرات ننظر تحت دی ام تکون من الَّذین لا یعتدون. می بینیم که آیا اون میشه ناسد یا تحت دی من هدایت میشه یعنی تشخیص درست میشه میشه ناسد ام تکون من اللذین لا لایحتدون یازونهای که بر هدایت نیستند یعنی تشخیص نمیده ببینید بسیاری از مفسران معتقدند که سلیمان علیه صلی اللہ علیه با این کار خودش میخواست این یک نوع دعوتی بود سوی ایمان بسوی هدایت میخواست نشان بده که خداوند با ما هست خداوند که تمام عالم در اختیار او هست در تصرف او هست او با ما هست یعنی معید دین ما هست و دین ما را خدای تعالی فرستاده لذت با این کاری که سلیمان کرده به معجزه سلیمان پی ببرد به حمایت پروردگار از سلیمان پی ببرد و هدایت بشه بیاد بسوی توحید بیاد بسوی ایمان به این خاطر تخت را که ببیند می دوند که خدا انکار را برای انها انجام داده وقتی که پشتیبانی خدا شامل حال انها است وقت او ایمان میارد او هم قبول میکنه که این پیامبر خداست اتا تدی آیا با همین هدایت میشه یا نه هدایت نمیشه؟ ام تکون من الذین لا یحتدون بالاخره وقتی که آمد بلقیس آمد ملکی سبا آمد سلیمان از او سوال کرد فلام مجاءت قيل اها هذا عرش وك اي التخت تو این گونه است مثل همین قالت كانه قالت كانه هو گفت گویا این همین است او همین است یعنی تخت من اينه مثل همین است الله تعالی می فرماید که و اوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ما علم داده شدیم قبل از این و ما مسلمین بودیم یعنی چه یعنی سلیمان علیه الصلاۃ والسلام اینا گفت چون بعضی میگن که این سخن سخن سلیمان هست او هنوز مسلمان نشده بود با این اولین نقش سلیمان و تدبیر سلیمان اون هنوز مسلمان نشد چرا بخاطر این فکر کرد که خب این پادشاهی هست که بعدها در اختیارش هست جنات در اختیارش هست این قدرت داره میتونین کار را بکنه این را به قدرت سلیمان حساب کرد بنابراین با این تدبیر سلیمان با این نقشی ای که سلیمان اجرا کرد او مسلمان نشد سلیمان گفت که و اوتینا من قبلها یعنی قبل از این معجزت به ما علم داده شده علم توحید مراد است علم دین مراد هست و کننا مسلمین و ما مسلمان ما تسلیم خدا بودیم ما در مقابل الله عزوجل تسلیم شدیم اما بعضی میگن که این قول قلم ملکی سبا هست او داره به سلیمان میگه قبل از اینکه این ماجزه را شما به ما نشون بدی ما تسلیم شدیم ما ایمان آوردیم ما متوجه شدیم که شما پیامبر خدا هستید خب و صدها ما کان تعبد من دون الله چه چیزی جلوی بلقیس را گرفته بود که ایمان بیارد صدها جلوه اون را گرفت بود معنی او شده بود خدایان باطل ما کانت نعبد من دونی الله انهایی که عبادت می کرد یعنی صد عن التقدم الى الاسلام عبادت الشمس و, بی و نشعوها بین ازغر الكفره چی چیزی جلوه بلقیس را گرفته بود تا حالا ایمان نیاورده بود با این هوش با این زکا با این زرنگی باز داشته بود او را مکان تعبد و من الله اون چیزهایی که عبادت یعنی فریبی اونها را خورده بود فریبه نه را ببینید مگر ملکه سبا چی چیزی را عبادت می کرد را عبادت می کرد را دیده بود که چقدر عظمت داره چقدر بزرگ هست و وقتی که او تلو میکنه تمام دنیا روشن میشه تأثیرش بر همه دنیا بر زمین بر درختان بر انسانها بر حیوانات لذب تا اینجا رسیده بود که خدا همینه که اینقدر تأثیر گذار است اینقدر نافع است مفید است پس چی چیزی جلوی سلیمان را گرفته بود جلوی بلقیس را گرفته بود از اینکه به خدا برسد نگذاشته بود مکان تعبد و مندون الله یعنی قرشید این نها کانت من قوم کافرین همانا این از قوم کافر بود بله بالاخره سلیمان علیه سلات و السلام وقتی که دید که این تاثیر گذار نشد سلیمان نقش دیگر را ایفا کرد، بازی کرد، تدبیری دیگر بکار بی برد. چیکار کرد؟ جلوی کاخی که سلیمان علیه السلام داشت، از جلوی اون کاخ جوی آب رد میشد، آب زیاد بود. یا یعنی اینکه جویی را خودش جاری کرد. اون جای محل درست کرد، پایین جوی آب بود یا حوض آب گذاشت. و اون را با شیشه پوشاند شیشه تئوری شیشه را اونجا روی اون آب گذاشت که معلوم نبود شیشه گذاشته وقتی که میرفتی احساس میکردی آب هست و احساس میکردی باید از آب خودم را حفاظت کنم راه دیگری هم نداره باید که از تو آب برم لذا بل چکار کرد وقتی که اونجا رفت ملکه سبا لباسش را بالا زد تا لباسش تر نشه سلیمان علیه السلام او را تفیم کرد که نه این از ظاهر فریب نخور اینجا در واقع این محلی هست سکوی هست که به وسیله شیشه پوشونده شده او متوجه شد که من فریب خوردن بی گرچه اینجا بعضی ها ای داستان دروغینی نوشتند گفتن هدف سلیمان علیه السلام این بود که پاهایش را ببیند چون جنات به او گفته بودند که احساس خطر کرده بودند که باش ازدواج نکنه گفتم با او ازدواج نکنی چون مادرش جن و پاهای بسیار عجیبی داره پاهای زشتی داره پهایش تمام موه داره و موهایش خیلی بد شکل و بد قیافه هست. سلیمان میخواست که او اینجا لباس شربالا بزنه شلوار شربالله بزنه ساغ پایش را ببیند. این بالاخره از اسرائیلیات هست از دروغهایی هست که درست کردند پیامبر خدا چینی قصدی نداشت. هدف پس چی بود؟ مفسرین بعضی ها نوشتند که هدف سلیمان علیه صلی اللہ این بود که به او بفهماند اونم مظاهر پرست بودند به او بفهماند که شما هیچ وقت از ظاهر فریب نخورید شما از ظاهر فریب نخورید اگر یک ظاهر زیبا می‌بینی، اگر یک ظاهر بسیار دلپذیر و دلکش میبینی منظره زیبایی میبینی پشت این منظره را ببین اون قدرتی که این منظر زیبا را منظره زیبا قرار داده کیه اون قدرت اصلی را ببین اینا هم مظاهر پرست یعنی هر یعنی هرچی که ظاهر بسیار زیبا و درخشنده و تأثیر گذاری میدیدند او را ایلاغ خودشون قرار میدادن ابراهیم علیہ السلام برای تفیم قوم مگر همینه نگفت ستاره آمد گفت هازا ربی ماه آمد گفت هازا ربی خرشید تلوکر گفت هازا ربی هازا اکبر بلاخره بزواهر ابراهیم علیہ السلام می خواست بکنه بکنه اینکی ظاهری خوبی داره زرق و برق داره درخشندگی داره نور داره این دار دوباره فنا میشه از بین میره لذا لا احب سلیمان هم اینجا میخواست انا را تفہیم بکنه که اینا ظواهر هستن آثار ظاهری قدرت خدا از و جل شما از این ظاهر فریب نخورید، اصل اون قدرت را شما بشناسید به او ایمان بیاورید او را سجد کنید او را عبادت کنید لذا چنان ظاهر اینجا درست کرد که این ظاهر فریبنده بود میخواست بهش تفهیم بکنه چون با اون جریان اول تفهیم نشد اینجا میخواست بهش تفهیم بکنه که گول ظاهر را هیچ وقت نخورد اونم تفیم شد اونم متوجه شد قرآن اشاره میکنه وقتی سلیمان بهش گفت که نه جناب ملکه اینجا آبی هست و چیزی هست ظاهرش طوره آب نداره نیازی نیست که لباس را بزنی بالاا و متوجه شد تابحال ما پس ظاهر پرست بودیم مظاهر پرست بودیم. و اصل باید اون ربی را که گرداننده همه این امور هست این زوااهر را زیبا آفریده اون را باید پرستش میکنیم. همین جا بود که اسلم تو سلیمان ایمان الله رب العالمین گفت. ایمان خودش را اسلام خودش را اعلام کرد اذا حکمتی که بعضی از اهل تفسیر گفتند همینه ذکر کردند والله عالم می فرمات قیل لها دخول صرح به او گفته شد که داخل صرح شو صرح همون محل را میگند فلما رأته وقتی که اون محل را دید حسبته لجتاً او را پنداشت لجلج میگن امقی آب راگ احساس کرتی آب عمیقی هست و کشفت عن ساقیها ساقین خودش را ظاہر کرد، لباسش را بالا زد سلیمان بیش گفت نه نیازی نیست قال انہو سرح ممرد من قواریر، این محلی هست که پوشنده شده از شیشه شیشه داره ظاہرش این طوره آب نیست که شماره تر بکنی لذا تأثیر شد از این صحنه، از این مسئله که سلیمان ایجاد کرده بود قالت رب انی ظلمت نفسی گفت من تبحال بر خودم ظلم کردم با عبادت خورشید و اسلمت مع سلیمانا لله رب العالمین ایمان آوردم بهم رب سلیمان با الله اون الله که رب عالمیان است ای حال به سلیمان ایمان آورد تسریم شد و تمام ملکش مسلمان شد اما بعد از این چی شد قرآن دیگه بیشتر تعریف نکرده اینکه بگن سلیمان نکاحش کرده پادشایش مالش چیزی نیامده در این باب وَلَقَدْ ارسلنا اَرْسَلْنَا ثمود فَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ الله ف اذا هم فریقانی اختصاص گفتیم گفتم در این قصه، در این سوره چار قصه هست که یا نشان دهنده این است که متصرف الله عزوجل است یا عالم الغیب این سومی هست. الله تعالی می فرماید ما بسوی قوم سموت برادرشون صالح را فرستادیم که شما این را قبلا خاندید. وقتی که صالح علیہ السلام شد مردم دو گروه شدند فریق به بسالح و فریق کفر دو گروه شدند با هم دیگه جر بحث می کردند و بعد این هم خاندید که از صالح علیہ السلام موجزه خاصتا شطوری خاصتا صالح اون شطور رحم بیشون نشون داد و بالاخره شطر را هم از پای در آوردن. در این شهر نه نفر بودن از اوباش یا به تعبید دیگه از سرداران و سران قرآن اینجا ذکر کرده اسم اون نه نفر رو این ها یکی افرادی داشتن هر یکی گروهی داشت که هر جا شری فسادی تو شهر انجام میگرفت به وسیل همین نه نفر بود اینها آخر بعد از اینکه به تنگ آمدن گفتن که این صالح و الکن ما نیست گفتن بیاییم با هم دیگه عهد ببندیم که او را بکشیم هر نو نفر عهد بستن سوگند یاد کردند که او را میکشیم و بعدن دیهی هرچی باشه به قوم صالح همه گی میپردازیم دیگه اونا نمیتونند از نو گروه انتقام بگیرند نه دسته بودند نه گروه بودند لذا همین شب که این مشوره را کردند الله عزوجل در همین شب تصمیم عذاب گرفتند به صالح دستور دادند از اینجا برود صالح با پیروان و با مؤمنین رفت الله تعالی عذابشان داد لامی فرماید ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا اما نما فرستادن به قوم سمود برادرشان صالح را با این مزمون ان اعبدوا الله انک فقط الله را عبادت کنید همه انبیا دعوتشون همی بوده فاذا هم فريقان یقتسمون در این هنگام دو فريق بودن دو گروه بودن با هم درگیر بودن فريقان مؤمن به و کافر به یقتسمون فیکول كل فريق الحق معي هم درگیر بودم قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه اونا گفتن عذاب بیار همون گروه کافر مشرک گفتن عذاب صالح نار تفهیم کرد خیرخای کرد که ای قوم من شما چرا برای سیئه عجله داری سیئه عذاب است قبل از حسنه شما از عذاب نخواهید حسنه بخایید حسنه چیه توبه استغفار ایمان رجوع الله. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه يا قوم من چرا اجل میکنید با ازاب قبل الحسن قبل استوبة و استغفار لولا تستغفرون الله چرا شما از الله مغفرت نمیخايد من الشرك تفسير جلال گفته لعلكم ترحمون تا اينکه مرد الرحمه الله واقب شيد الله بر شما ترحمكند قال الطيير نبك حماقت قوم ونه گرفتن نوح و شومی گرفتند قال الطيرنا بكا ما بطفالي میگريم به تو و به من معك مؤمنيني که با تو هستند صالح عليه الصلاه جواب داد قال طائركم عند الله یعنی طائر شما بطفالي شما عند یعنی در علم خداست خدا, خدا بهتر میدوند بل انتم قوم تفتنون شما از ما بدفعالی نگیرید شما قومی هستید که به فتنه گرفتار شدید به دلیل کفر شرک شما خودتون را تو فتنه انداختید هر بدبختی و بلائی برزر شما می آید سبب فتنه خود شماست سبب کفر و شرک شماست و کانا فی المدینه تسعت و رحت قرآن می در شهر در همین شهر صالح که حجر بود نه نفر بودند تسعت و رهت رهت جماعتی را میگویند که الستا تا نه تا باشد یعنی جماعت نه نفره یفسدون فی و لا يسلحون در زمین فساد میکردند. هیچ اثری از صلاح و اصلاح در وجود انها نبود اونها با هم دیگه مشوره کردن قالوا تقاسموا بالله تقاسموا بالله بعضی گفتن که انسیغه امر است تقاسمو باللہین بخدا سوگن بخورید محنی یعنی بیاید با هم عهد می بیاید عهد می بعضی میگن تقاسمو سیغه ماضی هست میدونی که تقاسمو سیغه ماضی هم می‌تونه باشه استفعول قالو مبدل من هواست تقاسمو بدل هست اونها گفتند یعنی با هم دیگه قسم خوردن. با هم دیگه عهد کردند پس تقاسمو با هم دیگه عهد کردند قسم خوردن یعنی که نه تقاسم تقاسمو قسم بخورید بیاد همه عهد میبندیم قسم میخوریم که ما صالح را از پای در بیاریم لذا عهدشون بر همین بود که چی؟ نهو در وقت شب پیش او حاضر میشیم و او و خانوادش یعنی میریم خونش خودشو اعضای خانواده تمام را میکشیم بعدن از ما قومش ورسش بقیه نزدیکانش که بپرسن ثم لنقولن لولیه ما شهدن محلک اهلیم بعدن این کار میکنیم میگیم ما در حالات اهل او هیچ نقشی نداریم هیچ خبر نداریم و این نالا صادقون راستن میگیم لیزا وقت سوگن میخوریم که ما راست میگیم و ما همه چیز را انکار میکنیم همه چیز را قبول نمیکنیم بله الله تعالی میفرمان او بیچارها به زعم خودشون این توتعه را کردند خبر نداشتند که ما از آسمان بر علیه توتعه اونها داریم تدبیر میکنیم مکرو برنامه ریزی میکنیم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا انها مکر کردن توطئه کردن یک توطئه ای تدبیر کردن یک تدبیری مکرنا مکرا مكرن ما هم تدبیر کردیم تدبیری وهم لا يشعرون انها نمیدانستند مکر اونها چی بود توطئه و نقشه اونها چی بود قتل صالح مكرهم ما أخفوهم من تدبير الفتك بصالح وأهله قفتاً كي هوميكوشم صالح را وأهلش را ومكر الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون أما نقشه إلهي وحلاكة ينهابود بس مكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم مكر إنسان در مغابله مكر الله خيري زيفه فانظر ببين آقبة مكرئنها آقبة نقشيك كشيداً چشد أننا دمرناهم وقومهم أجمعين ما انهلاك کرديم تباه کرديم انهارا وقومشان رحمقی حمقی رما انهلاك کرديم الآن آثارشن هنوزحس ببينید فتلك بيوتهم خافية بما ظلموا این خانه‌هاشون هست که سرنگون هست، ویران هست، منظور از خاویه، ویران هست به مازلم و به سبب شرک شان بری ببینید آثار رمی بینید هنوز آثار قوم صالح قوم ثمود هستند. این فی ذلک لآیت القومی علامون همان در این آیه هست نشانی هست داخل بر قدرت الله عزوجل اما این نشانی برای قومی هست که یعلمون می دانند وَأَنْ جَيْنَ آمنوا و وَكَانُوا يَتَّقُونَ در نتیجه این تدبیر ما نجات دادیم مؤمنین را کسانی که ایمان داشتند و کسانی که خدا ترسی داشتند و کانو از شرک دوری می کردند از کف دوری می کردند پرهیز می کردند انها را الله می فرمین ما نجات دادیم پس این گونه الله عزّاؤه جل تدبیر می‌فرماید. این داستان سوم که در این داستان معلوم میشه که قدرت مال الله است، تصرف مال الله است، مال کسی دیگه نیست. تمام علیه قدرت هر که نیرو داشته باشند، هر که اوباش باشند، هر که جماعت و رحت و گروه داشته باشند در مقابل الله عزّاؤه جل هیچ قدرتی ندارند. وهم چنین داستان چهارم نال لوت علیه الصلاۃ والسلام هست قوم لوط هم همون طوری که قبلا شما خوندید این مشکل اخلاقی را داشت فساد اخلاقی را داشت الله تعالی آنها را هم نابود کرد ولوتن ای ارسلنا لوتن اذ قال لقومه اتاتون و وانتم تبصرون و شما فایشه رم پیش فایشمی اید یعنی مرتکب میشی فایشه بیهایی بی افتی فساد اخلاقی و آن در حالی که شما میدونید اینجا توبسرن به معنای بسارت چشم نیست بسیرت قلب است من بصر القلب ای اتفعلونها والحال آن آن تعلمون علما یقیناً ب می یقین میدونید که کار زشتی میبینید میدونید که خیلی بده اون فاحشه شون چی بود بیان فاحشه عین لكم لتاتون الرجال شهوته من دون النساء شما پیش مردان میاد به منظور شهوت رانی و حوست رانی بدون زنان بل انتم قوم تجلون شما قومی هستید عملا جاهلید نادانید با این کار خودتون دارید نادانی بزرگی را مرتکب میشید اما اناد قوم ببین پاسخ قوم فما کانا جواب قومه الا انقالو نبود جواب قومش مگر اینکی گفتند اخرجو آلالوت آلالوت را بیرون کنید با این خدا ترسی کی ادارد با این احتیاطی که ادارد بیرونش کنید از شهر ما من قریت کما قریتون بیرونش کن لوط علیه صلی اینجا از خود این قریه نبود اینجا لوط علیه صلی مهاجر بود از عراق آمده بود با ابراهیم آمده بود این هم اناس یتطحرون انها مردمانی هستند که پاکی را انتخاب میکنند اختیار میکنند یعنی پاکی را در واقع ترویج می و پاکی را میخوان ما نمی خواهیم رق پاک دامنی و پاکی زگی و زندگی پاک بودند الله می فرمد فَانْ جَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مَا اُو را نجات دادیم اهل و ایالش کی ایمان آورده بودم من های زنش اِلَّمْ رَاتَهُ قَدْ دَرْنَاهَ مِنَ الْغَابِرِينَ یعنی برای او در ازل مقدر کرده بودیم که از مندگاران بشه کسانی که اونجا بماند و امطرنا علیه مطره بارانی را بر اونها باران دیم که این باران نوع خاص بود باران سنگ بود فسا مطر المنذرین بسیار بد است و بسیار قبیه و زشت بود باران کسانی که ترسنده شده از عذاب خدا و نترسیدن یعنی باران سنگ باران بسیار خطرناکی هست ببینید معلوم شد که الله عزوجل اینها را بعد از اینکه که اینها از لوت علی صلی اللہ حرف شنوی نداشتن چندین این عذاب داد یکی از اونها سنگ باران بود یکی دیگر از اونها سرنگونی روستایشون و بردن شهرشون به آسمان و از اونجا زدنش به زمین بود یکی دیگه اون سیحه و فریادی بود که جگرهایشون را پاری کرد انواع عذابها خدا برای اینها داد خب پس از مجموعه این داستانها چی ثابت میشه؟ از مجموعه اینها ثابت میشه که واقعا قدرت تصرف مال الله است از آن اللہ است نه در دست پادشاهان هست مثل بالقیس و امثال بالقیس نه در دست اوباش و اشرار هست نه در دست گروههای دیگری که دست های فساد دارد مثل انصع اورات فقط و فقط مال الله بس قل الحمد الله الان نتایج این داستان های چگان رمی میخوایم فرعون قدرت داشت فرعون هم نابود شد قل الحمد لله بگو فقط و فقط حمد ما فوق الاسباب برای الله است اون تعریفی که لایق عبودیت و علوهیت باشد اون مال الله است و سلام على عباده الذین استفا اما بندگان برگزیده خدا بر اونها سلام از هر آفت از هر مصیبت. و السلام على عباده الذين سلام از آفات و بلایا بر بندگانش اون بندگانی که الله برگزیده ببین این تعریف و این حمد از بهترین و جامع ترین نوع حمدها است به همین خاطر شما می‌بینید که در خطبه‌ها زیاد به کار برده میشه یا اول خطبه یا آخر خطبه خطبا می خانند الحمدلله و سلام على عباده الذين استفا اول خطبه می خانند آغاز خطبه می خانند. یا در پایان خطبه می خانند. چونکه در اینجا هم توحید هست و هم رسالت هست و هم انبیاء الهی در کنار الله ذکر شدند اما چگونه ذکر شدن؟ ذکر شدن با اون جایگاهی که دارند از روی پروردگار که اونها انبیاء خدا هستند خداوند اونها را از هر آفت و از هر بلا و مصیبت سالم و محفوظ قرار داده پس اونها مح... این بازم توحیده اونها محتاج خدا هستند اونها نیازمند خدا هستند و خدای تعالی اونها را از آفات و از مذرات دنیا سالم و مأمون قرار داده و سلام بر عباده خب حالا الله تعالی بعد از اینکه اثبات فرمودند خداوند قدرت مافوق الاسبابی دارد قدرت فوق العاده ای دارد حالا شما مخاطبین جواب بدید شما که این قصه ها را شنیدید قل الله ها الله آیا الله بهتر است از نظر معبودیت اما یشرکون یا انهایی که انها را با خدا شریک می سازند اونهایی که با خدا شریک گرفتند کدوم بهتر هستند؟ لیسا معلوم میشه که انهایی که با خدا شریک ساخته، انها هیچ قدرتی ندارند هیچ دوان و نیروی ندارند قدرت قدرت الله است ملک ملک الله است بعد از این اللہ تعالی چندین دلیل ذکر میکنه همین دلائل اعترافی هستند على سبيل الاتراف من الخصم امن خلق السماوات والارض یا ان ذاتی که آفرید آسمانها و زمین را و نتنها آسمانها و زمین را آفرید بلکه و انزل من السمائی ما نازل فرمود از آسمان آب نازل فرمود فانبتنا این التفات هست نه؟ شما قبلا خاندید تو بلاغت که یکی سورت های بلاغت التفات از غیبت به تكلم هست یا از غیبت به خطاب هست یا از خطاب به غيبت هست اینجا الان التفات شده از غیبت به تكلم اول خدا می او نازل کرد یعنی خداوند و بعد ی وقتی به ذهن شما ندید که کسی دیگه هست لذا می فرموید فا انبتنا ما رویان دیم دیگه نگفت او رویان دیم فا انبتنا بهی حدا اقضات بحجا ما رویان دیم بوسیل اون آب باغچه های و تازه دارای زیبای و بحجت ما کان لکم انتم بی تو شجرها در اختیارین شما نیست برای شما نیست که شما به یعنی در بیارید درختش را همه این درختان را همه سبزیجات را همه آبادی را الله می فرماید ایلا هم مع الله آیا با خداوند معبود دیگری هست بل هم قوم یعدلون بلکه در واقع اینها قومی هستند یعدلون یعدلون به معنای عدل و برابری یعدلون در عبادت بنیسید یعنی دیگران را در عبادت با خدا شریک می سازند همونطوری که برای خدا باید سجده بشه برای غیر خدا سجده میکنند برای خدا باید تواف بشه غیر خدا را میکنه. این یک معنی یعدلون است معنی دوم یعدلون از عدول است عدول یعنی از حد گذاشتن تجاوز کردن از حد میگذرند. تجاوز میکنند بجای عبادت خدا شرک میکنند این ادول است بل هم قوم یعدلون اما جعل الارض قرارا این دلیل دوم است اقلی اما جعل الارض قرارا آیا اون ذاتی که زمین را قراری قرار داد قراری در این زمین ما بلاخره قرارگاه قرار ما زمین هست باشنده زمین هستیم اهل زمین هستیم و بعض برای اینکه قرار ما بهتر باشد و اینجا سکونت بهتری داشته باشیم تدابیر دیگری هم برای ما فرمود و جعل خلالها انهارا در میان آن نهرهای قرار داد و جعل لها رواسی و برای ان کوهای قرار داد میخوای و جعل بین البحرین حاجزا بین دوتا دریا مانع قرار داد قبلا نین شما خاندید دوتا دریای دریای شور هست و دریای شیرین هست خدا مانی قرار داد ای که غیر مرئی هست نامرئی هست اون پرده نمیگذارد هیچ وقت آبای این دریای شور و شیرین با هم دیگه قاطی بشن یه جانی هم در دنیا جاهای زیادی هست آیا لهم مع الله آیا هم رابا الله معبود دیگری هست بل اکثرهم اکثر هم لا علم اکثر اینها توحید را نمی دونند با خدا معبودان دیگری را عبادت می کنند و قائل هستند این از جهل لاعلمیشون هست اما یجیب المطر اذا دعا دلیل سووم هست آیا کدوم ذات است که جواب می ده مستر وقتی که او را فریاد می زند و یک شف دور می کند آسیبش را ببینیم مستر مراد فقط مومن نیست هر مستری وقتی که تو اصرار میفته زاری میکنه ای خدا تو به کمک کمکم کم کن تو به دادم برس الله اجابت میکنه اجابت دعا در دنیا ما قبلا خاندیم به مومن اختصاص نداره همین مگر مشرکین مستر نمیشدند اذا رکبوا فالفلک دعو الله مخلصین له الدين یکه صورت های اصرار همین بود تو دریا وقتی که می و با موج و با گرداب ها گرفتار می شدند مستر می شدند اونجا تیگه ظاهری می کنید خدای فقط تو همین بار مارا نجات بده خدا نجاتشون می دهد من نجاهم الالبر وقتی نجات می پس ببینید مستر هر کسی که مستر بشه و خدای تعالی را خالصانه و مخلصانه صدا بزنه الله تعالی اگر مسلحت درون باشه و حکمتی باشه الله حتما نجاتش میده. پس مضطر فقط مسلمان نیست مراد اما یجیب المضطر را اذا دعاو وقتی که اورا را می و یکشف السو و دور می گردن السو را را مصیبت را و یجعلكم خلفاء الارض و خداونده از جل شمارا جانشینان در زمین یعنی گروه اول را خداوند از این دنیا برد شما را قرار داد شما را قرار میده و شما را باز می بر گروه دیگر را قرار میده یعنی اگر امروز نجاتی آفتی برای این نجاتی تو هیچ به اعتمادی نیست فردا بار دیگر این حادثی بیاد شاید دیگر نجاتی نباشد شاید بری از این دنیا و کسی دیگر بیاد جایت گروه دیگه بید شما ویجعلكم خلفا الارد ایلا هم مع الله آیا همرا با الله معبود دیگه هست قلیلا ما تذکرون قلیلا بیمان عديما هست اصلاح شما پان نمی شما نسیتا سلا می که یعنوز شرک می اما امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا چی کسی هست که راه نمائی می کند در تاریکی های خشکی و دریا در گاهی تو خشکی تو جنگل تو تاریکی گرفتار میشید خدا تعالی یا به وسیله ستاره شما راهنمایی کن یا همو تو که قبلا خاند روی این زمین خیلی علامت ها خدا گذاشته اون کوه را میبینی میدونی که باید از راست اون کوه رد بشی فلان تپه را میبینی فلان نشانی را میبینی نشانات خدای روی زمین زیاد است یعنی که ستاره و در دریا باز فقط ستاره است امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر چه ذاتی شمار راہ نمائی می کند در تاریکی های بر و بحر من یرسل الریاح چه کسی هست کمی فرست بادھارا اون بادھائی لک بشرم بین ید رحمت قبل از ارز کنم خودشان مجد دهنده رحمت خدا هستن یعنی پشت سر ما باران میاد ای هم الله این خدای که این تصرفات را دارد با اون معبود معبود دیگری وجود دارد هرگز نیست تعال الله عما یشرکون خدا من برتر و بالاتر است از اون چیزی که مردم با او شریک می سازند اما یبدعو الخلق ثم یعیدو یعنی که چه کسی خلق را مخلوقات را آغاز کردند سپس اون خلق را اعاده می کند یعنی چه؟ یعنی اول هم او آفرید ثانی هم او میآفریند بعد از مرگ هم او دوباره خلق می کند و من یرزق و چه ذاتی هست که به شما رزق میده از آسمان و زمین ببین سمیعیده را اون را قبول نداشتند اما این یکی از روش های استدلال هست که اون چیزی که قبول نداره در لابلای اون دلائلی که اونا را قبول داره مثلا ومن یرزقکو من از سمای والارد را قبول داشتند چه ذاتی است که بشمار رزق میده از آسمان ها و زمین بس همون طور که قبول دارید که فقط خدا رزق میده همین طور بدونید که خدا ابتدا خلق کرده دوباره اعاده می کند ایله هم الله همرا با الله معبود دیگه وجود دارد نیست اگر حز بیارید دلایلتون را قل هات وبرهانکم ان کنتم صادقین بیارید دلایلتون را اگر شما راست می گید ای حال پس ببینید اینا همه تصرفات و بیان قدرت خدا بود گفتیم که چار تا داستان تو این قصوره هست از این چار داستان دو تا نتیجه میگیریم یکی این که مدبر و متصرف و صاحب قدرت فقط خداست از داستان لوت و صالح به همین نتیجه رسیدیم که اون اوباشها را اون اشرار را اون آدمهای دارای همه و قدرت را خدا نابود کرد پس همه تصرفات مال الله است همه ردق و فتق به دست الله است و از دو تا داستان اولی که مال سلیمان بود و یکی مال حضرت موسی بود نتیجه میگیریم این این متفری بر اون دو داستان اوله که عالم الغیب هم فقط خداست قل لا يعلم من في السماوات والارض بگو نمیداند تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند تمام کسان من اولا که برای زبیل و قول به کار برده میشه برای بت و سنگ به کار برده نمیشه و بعد من في سموات والارض عام هست هر چی در آسمان و زمین عام جن انس فرشته شامل انبیاء و اولیاء و اسفیا و ائمه و همه میشه نمیداند اونهایی که در آسمان ها و زمین هستند غیب را مگر الله اونها که حتی وفات کردند و از این دنیا به اون دنیا منتقل شدند در انتظار هستند که از قبر بلند بشن زنده بشن پیش خدا حاضر بشن اما کی نمیدونن این قدر هم نمیدونن چطور پس از احوال شما و از احوال مغیبات دیگه خبر دارند و ما ایانه ایان یبعثون اونها نمیدونن کی از قبر بلند کرده میشوند بل دارک علمهم فی الاخره اللہ تعالی می فرمات کہ انہا که انکار می کرتے دلیل اصلیش یہ کہ بلد دارک علم ہم الدارکہ ب معنی فنا از محلہ از بین رفت یا ب پایان رسید به بنبس رسید علم انہا و اگائی انہا دربار آخرت دربار آخرت اگائی انہا به بنبس رسید چی نمیدونند بل هم فی شک منها ونین که نمیدونند ان این قادر لا یعلم هستن که شک دارند در بار قیامت مشرکان بل هم منها عمون و واقعیتش ان ترقی از ما قبله شک بجای خود بلکه نسبت او سرگردانند عمون یعنی از علم قیامت اونها نابینا هستن معنی که سرگردان هیچ چی از قیامت نمیدانند خب تا اینجا بیان شک و بیان لا علمی بود از به بعد زجر بر اونها که اونها چه چی چیزی شک را در اونها ایجاد کرده همین که قیاس میکنند به ظاهر و تنها از عقل و خرد خودشون کار میگیرند میگفتم وقتی که انسان خاکستر بشه انسان استخوان پوسییده بشه انسان چطور دوباره زنده بشه وقالوا ای وقال الذين كفروا كفار قفتن اي ذا كنا ترابا واباءنا اين لنا مخرج ان اخ وقتي ما تبديل بخاك هم ما وپدران ما دوباره از قبر بیرون كارده ميشيم اين لنا لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل هم انك دوباره زنده ميشيم به اين وعده شده هم ما وهم پدران ما قبل از ولی ندیدی من پیدران زنده بیشن رفتا که رفتا توان زنده نشوند ما هم وقت بمیریم دیو بمیریم پشتساری نیست اعاده نیست این هادا الا اساطیر الاولین نیست این مگر افصان های پیشینیان داستان های گزشت قل سیرو فی الارد انجا تخویف الدنیویست اللہ می فرماید بینها بگو شما سیری بکنی تو زمین بگردید. قلصیرو فی الأرض فنظر کیف کان عاقبت المجرمین ببینید انجام انسانهای مجرم را مشرک را، اونهایی که انکار کردند مثل شما قبول نکردند عاقبت آنها چی شد؟ ببینید معلوم میشه این مشرکین بجای تسلیم شدن همیش جر و همیش جنجال و همیش جدال بالباطل لاشتن این چیزی بود که رسول الله صلی الله علیہ وسلم را خیلی حزین میکرد ناراحت میکرد لذا در لابلاء پاسخ انها خدا تعالی بفیانبرش تسلیم میده شما نگران نباش شما پریشان نباش ولا تحزن عليهم. ولا تكن في ضيق مما يم تكن في ضيق مما يمكرون بل انها جوش نزن که اونها ایمان نمیآورند قیامت را جر و بس میکنند و در تنگی هم نباش دلت نگیره ولا تكن في ضيق یعنی دلگیر نباش از اون چیزی که اونها تدبیر میکنه مکر میکنن نقشه گوندار خدای تعالی همون که نقشه گذشتگان را بر آب کرد و به نرسیدن اینها هم به نمی رسند خب اونها وقتی که در باره قیامت با اونها صحبت میشد چنان چه شما قبلا خاندید به بعد مسخره می گرفتند میگفتن که خب این وعده کی هست راست میگید ما بدونیم تا هم خودمون را برای اون آماده کنیم مسخری بود و یا قولون متا هاد الوعد این واده یعنی وعده عذاب وعده قیامت کی هست این ان کنتم صادقین الله تعالی می فرماید هم این وعده وعده عذاب است قل عصا ان یکون رادی لكم. بگو نزدیک هست که دنبال شما باشد یعنی تاقیم میکنه اون عذاب شما را همیش در کمین شما است رد فلکم یعنی لاحقكم منظور از لاحقه و هست. است بی نزدیک به شما برسه شما هر جا داری میری اون عذاب داره شما رو تعقیب میکنه شما رو دنبال میکنه وقتش که برسه میزنه شما رو میگیره شما رو قل اصا نزدیک هست یا عصا به معنی یقین قطعا يكون او ملحق میشه به شما او به شما میرسه شما را دنبال میکند بعض الذي تستعجیلون بعض بعضی اون چیزی که شما عجل میکنید مفسرین این در غزوه بادر اتفاق افتاد یعنی عذابی بخشی از عذاب همه عذاب نه بخشی از عذاب همون شکستی که خدا داد بهشون خاری که داد کمر کفر شکست همین بعضی از اون چیزی که شما عجله میکنید و ان ربک لذو فضل علی الناس این دلیل تاخیر است چرا خدا تعالی فوراً عذاب نمیده چرا موخرشون کرده و رب ربک لذو فضل علی الناس همان رب تو داره فضل است بر مردم بر مردم احسان دارد فضل دارد ولیکن اکثرهم لا يشکرون اما اکثر مردم سپاس گزار نیستند سپاس گزاری نمی کنند ناسپاسی می کنند کفران نعمت می کنند لا رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ سُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ خداوند از درونشون هم می دوند. چرا اینها ناسپاسند چرا اینها ایمان نمی آورند چون اعتقادش را ندارند باورش را ندارند و این ربک لیعلم همانا ربتو می داند ما تکنن صدورهم اون که سینه مخفی می کند و ما یولین اون چیزی که اونها علا نمی کند چرا هیچ غائبی در آسمان و زمین و اطراف آسمان و زمین نیست مگر در علم خدا هست در لوح محفوظ است یعنی همه چیز را خدا خبر دارد دیده برای خدا چرا ندارد و ما من غائبه فی السماء والارض هیچ غایبی یعنی هیچ مخفییی نیست در آسمان و زمین الا فی کتاب ممی مگر در لوح محفوظ است یعنی در علم الهی وجود دارد خدا از همه چیز خبر و مطلع است ان هذا القرآن یقسو على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون الله طالبی فرمايت این قرآن انجتارغيبي لالقران است این قرآن بر بني اسرائيل تعریف میکنه بیان میکنه يعني یعنی قرآن چنان کتاب جامع است که حتی نسبت به علوم گذشته و شریعت های گذشته هم تسلط دارد نسبت به شرایع گذشته هم کاملا قرآن واقف هست تسلط دارد مطلع هست الله می فرماید که یا على بني اسرائیل بر بني اسرائیل تعریف می کند اکثر اللذی هم فیهی اختلفون اکثری چیزهایی که انها دارن اختلاف دارند اکثری چیزهایی که بني اسرائیل اختلاف دارند قرآن مجید بیان میکنه. مثلا چیزی که انها حلال و حرام میدونن قرآن بیان میکنه کنه کدوم شکدوم یا مثلا بنی اسرائیل در عیسی ایسا اختلاف داشتند، نمیدونستان ولكن شب بحلان کشته شد نشد، بدار زده شد نشد، قرآن بیان میکنه. هر چیزی که ابهامی در اونها است، اختلافی در اونها است قرآن بیان میکنه. پس چنان کتابی هست، از سوی پروردگار. و اینهو لهدا و رحمت للمؤمنین. همانا این قرآن هدایت است علماً و رحمت است عملاً. أما براء مؤمنان هدايته ورحمته. سنة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم. أما أن ربك بينهم همانا فيسلم يكونت أملا بهكم. در قيامات فيسلم يكونت والله تعالى غالب هست ودان هست. لذا وقتك ربما هم علمش کامله هم قدرتش کامله ما بندگان اون رب باید چکار کنیم فتوکل على الله پس در هر چیزی بر خدا توکل کن اگر بر خدا توکل کردی و بخدا چسپیدی انك على الحق المبین همانا تو بر حق هستی اون حق آشکار حق روشن یعنی توحید که حق مبین هست شما در اون مسیر حق قرار دارید در مسیر درستی قرار دارید به شرطی اینکه با خدا ارزم به خدا اعتماد داشته باشی به خدا توکل داشته باشی انك لا تسمع الموت ولا تسمع السم الدعاء اذا ولو مذبنی سوال پیش میاد که وقتی که قرآن را الله تعالی می فرماید هدایت است رحمت است این قرآن چرا در اونها تاثیر نمیگذاره؟ چرا برای اونها هدایت نیست؟ چرا برای اونها رحمت نیست؟ الله تعالی می‌فرماید دلیلشینی که کسانی که مرد باشند شما نمی‌توانید اونها را یعنی کفار را خدا تعالی تشبیه داده بیشی به مردها که مردها را شما نمیتونید؟ اینها مثل مرده هستند. نمی توانید انها را بشنوانید به چند چیز خدا تشبیح داده. یک به مرده دو به کسی که ناشنوا هست هست سه به کسی که نابینا هست کور هست ببین اولی اینکا لا موت موتا دوم ولا تسمیل سمم کسی که اصم هست کر هست هم نمیتونه بشنوانی سه ما انت بهاد العمی کسی که کور هست او هم نمیتونه راهنمایی کنی کور که بشنوان ولی راه را نمیبیند او را نمیتونه راه کنی بنابراین اینا کافر اینا هستند اینا کرند و کورند اینا چیزی نمیبینند به این دلیل قرآن در اینها تأثیری ندارد قران در کسی تاثیر دارد که گوشاش باز باشه. بیش نماد قران را اینا که نمیشنوند کسی که نمیشنود نمی تواند که از او بهره ببرد وینه از اینجای مسئلهی مسئله ای هست که همیشه این مسئله عنوان میشه روزها داغ هست گرچه ما عادتا مسائل اختلافی که فرعی باشند زیاد علاقه بحث کردن نداریم ولی خب چون اینجا آیه آمد این آیه را باید مقداری تشریح بکنیم تا خود آیه را شما بفهمید از آیات قرآن مجید هم اینجا هم دو جای دیگه هم بیان شده و ما انتا بی من فی القبور معلوم میشه که اصل از کنم که اولن خداوند چندین جا کفار را تشییب داده به مردها و اهل ایمان را تشییب داده به زندها اینما يستجيب اللذين يسمعون. اینما يستجيب اللذين يسمعون. والموتى يا با سُهُم الله ثم ميله يورجاهم. از کنم که و ما انتا به مسمع منفل قبور تشبیه در چی هست تشبیه اصل در عدم سما هست اینجا اختلاف هست بعضی میگن در عدم اسماء هست در عدم سما نیست شما نمی توانید بشنوانید یعنی تبلیغ شما تأثیری ندارد ما میگیم عدم اسماء مستلزم عدم اسماع هم هست وقتی نتوانی بشنوانی دیونه هم نمیشنواند اصلش اینه ببینید اگر ما یک نظر اعتدالی که این نظر نظر جمهور علما هست برچین اختلاف از اهد صحابه هست بییک نظر اعتدالی ما بیایم. او این است که اصل ادم سماح است اصل در مردها چیه ادم سماح است استثناءاتی وجود دارد یعنی خدا اگر بخواد می شنود. هر وقتی که خدا بشنوانت می شنوند مثلا شما خاندید حدیثی هست که وقتی که قاتلای بدر کشته شدند سردارانی کفر در بدر کشته شدند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داد همه را در یک چاله بندازند به بدر معروف است اونجا انداختند اونجا وقتی که انداختند رسول الله صلی الله علیه و سلام احمد را خطاب کرد گفت که هل وجدتم ما وعد ربکم حقا اون چیزی که خداوند وعده کرده بود شما اون را یافتید حضرت عمر رضی الله تعالی نو اعتراض که گفتی یا رسول الله مگر اینها میشنوند معلوم میشه که دیدگاه اونها و باور اینها هم همون بود که این نمیشنوند رسول الله فرمود که اینها الان مثل شما میشنوند اینها مثل شما میشنوند ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وقتی که حدیث را گفتند همین گفت که اون معجزه پیغمبر بوده من قبلا در سوره اعراف هم خدمتش عرض کردم نه تنها معجزه رسول الله معجزه همه انبیا بعد از اینکه خداوند اقوامشون را هلاکت کرد عذاب آمد مردند کشته شدند انبیا اونها را خطاب کردند که ای قوم من تبلیغ کردم من رسالت را به شما رساندم من خیرخواهی کردم ولیکن لا تحبت ناسی خب اونا که شده بودن نابود شده بودن هم برای حضرت شعب این پیش آمد هم برای از کنم که حضرت صالح یا قوم قد ابلغتکم رسالت ربی خب اونجا خدای عزواجل زجرن و اینکه که اونها را بیشتر عذاب داد از نظر روحی صدای پیامبر را به گوششاً مثل بلنگو را سند. این موجزه اون پیامبر بس اصل اینه که اگر ما این را بگیم همه دلائل خود خود هر یکی از دلائل لازم نبگیم این ضعیف اون قوی هست همه سر جای خودش جا. اصل عدم سما هست اصل نشنیدن هست اما هر وقتی که خدا بخواهد میشه روانت استثناءاتی وجود دارد استثناءات مثل همین که انبیاء لی مسلا و, و سلام را خدا تعالی صداشون را بگوش اونها رساند اهل بد که کشته شدند تبلیغ رسول الله صلی الله عليه وسلم که همونطور رسول الله فرموده اینا از شما کمتر نیستند از شما بهترم میشناوند صدا رسول الله تبلیغ رسول الله این حل وجدتم ما وعد ربکم حقان رسول الله اونا مثل زنده ها شنیدند پس این استثناءات اما اصل اینه که حال این نمی شنباد. چرا؟ چون اللہ تعالی چندین جا تشبیح داده به مرده ها به مرده در چی تشبیح داده؟ به این نشنیدن تشبیح داده لذا الله تعالی می فرماید که انك لا تسمع الموت هم انا شما نمیتوانید بشنوانید مردها را و لا تسمع الصم يعني کفار منظور و نمیتوانید بشنوانید کر الدعاء سدار به اون نمیتوانید بشنوانید کر دیگه بالخصوص اذا مدبرین وقتی که برگردند پشت دهنده ببینی اگر کری اینجا تشبیه داده شده به اون کری که رویش به طرف شما نیست چون کرها ماشاءالله زرنگن لبخندی میکنن روبروی شما بشه هر چی بگی شاید بفهمید از لبها شما تشخیص میده چی داری میگی اما وقتی که سمت دیگه نگاه میکنه از پشت باشداری داری حرف میزنی یک کلب هم نمیفهمد پس تشبیه دوم مثل اون کری که اذا ول لو مدبری اون کرهایی که میروند پشت دهنده هستند و ما انتبیح تشبیه صرفم شما نیستید راه نما کنم که راهنمای کورها اینجا بحث دیگه سمع را آورد شنیدن را چون که کور میشنود لذا اما کور نمی بیند راه را, را که بهش بگی همین راه را مستقیم برو ون راه را نمی بینت وما انت بها دل عمی عن ضلالتهم شما راه نمائی راه نمائی نابینا ها عن ضلالتهم بسبب گم راهی انها گم شدن انها ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا نمی شنوانی مگر کسی را کی ایمان آیات ما بیارد یعنی زنده را مومنان را مؤمنان رأى الله تشبیمه به زند زنده فهم مسلمون انها تسليما املا انها در مقابل آيات ما تسليما وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُ بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ الله تعالى بعد ذلك در باري قیامت اما در این تخویف اخروی علامتی از علائم قیامت بیان شده ما قبلا خواندیم که بسیاری از علائم قیامت اون علامت هستند که نزدیک قیامت اتفاق می افتد مثلا یکی از اون علائم ظهور دجال است از اون علائم نزول ایساست، است از اون علائم خروج طلوع خورشید من المغرب هست یکی از اون علائم ظهور یا خروج یاجوج و ماجوج هست آتشی از یمن از سنعائی یمن بلند میشه تمام دنیا رو میسوزوند این تمام علائم هستن یکی از اون علائم دابت ارتس که در این آیه ذکر شده این دابته الارض چیه چون که در آیه درباره این تفصیلا بیان نشده و از حدیث صحیح هم درباره دابته الارض به صورت تفصیل نیامده به این خاطر مفسرین اقوالشون مختلف است اقوال مفسرین مختلف است لذا همینقدر ما میدونیم که حیوانی ظاهر میشه که با انسان صحبت میکنه و به انسان میگه که شما انسانها به خدا و به قیامت ایمان ندارید. اما این حیوان بسیاری معتقدن حیوانی است همون وقت همون وقت خدا تعالی این را تازه تی میکنه الان در دنیا وجود نداره. اون زمان تازه خلق میشه اون زمان دبط الارد ظاهر میشه با انسانها صحبت میکنه اما بسیاری موتقیدن شیخ ما همین اعتقاد را داره که این حیوان خاصی نیست همه حیوانات مراد هستند، یعنی قرب قیامت وقتی بشه علا قیامت ظاهر بشه اتفاقات شدید رخ بده اتفاق بیفته تمام حیوانات لا على التعین حیوانات با انسان ها صحبت می کند پس مراد از از کنم قیام ساعت قرب قیامت هست خود قیامت نیست نزدیک قیامت منظور اینه که در قرب قیامت یک حیوان ظهور می کند که با انسانها هم کلام میشه. و میگویم که مردم نشانات قیامت را قبلا تسلیم نمیکردند، الان همه نشانات ظاهر شد. اون زمان که مردم میدونن که قیامت قطعی هست، ایمان میآورند ایمانشون قبول نمیشه، چون که قبلا خدمتش ما عرض کردم، خداوند ایمانی را میخاد که ایمان بالغیب باشه، یعنی ندیدیم باور کنیم، اون زمان دیگه ایمان بالغیب نیست. الائم <سؤال> را دیدیم، دیدیم که خورشید چطور برعکس تلوک کرد، دیدیم که حیوان چطور داره صحبت میکنه. الان دیگه پرده برداشته شد، اون چیزهایی که در غیب بود، ظاهر شد. الان کسی ایمان بیاره ایمان دیگه نیست، ایمان بخور هم نیست. لذا تكلمهم به آن الناس کانو لا يتا يکنون به آيات الله الناقه بمجی استعاره علمانی میگه. این دابت الارد چی کلامی می کند ای مردم شما علائم قیامت را که درباره قیامت بودند شما اینها را قبول نداشتید الان این علائم ظاهر شدند الان مشخص شدند چنانچه خود این دابت الاردی که ازمون علائم است دیگه اون زمان ایمان ای نداره توبه ای نداره بازگشت نظر واذا وقع القول وقع القول يعني قو... قيام الساعه مرادز وقتي كي قيامت برپا بشه أما قبل خدمت شمارز كردن كي مرادز وقوع قيامت قرب هست يعني نزدیک بشه وقع القول عليهم قيامت بر اونها برپا بشه يعني نزدیک بشه قبل از اينكه قيامت اتفاق بيوفته اخرجنا لهم دابتا من الارض ما بیرو می کنیم برای آنان دابی حیوان را الزمین که تکلمهم با انها سخن می گوید و بانها ایوب انها را اشکال کاری انها را گوش زد می که ان الناس کانو بی آیاتنا لا یقینون که مردم به آیات ما یقین نداشتند باور نداشتند. الان آیات الهی ظاهر شد الان همه مردم یقین کردن همه آمدن کی ایمان بیاورن ولی ایمان اونها هیچ دردی نمی خورد فایده برشن ندارد و یوم نحشر من کل امت فوجا من من یکذب من من یکذب فهم یوزعون حتى اذا جاء وقال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون قبل ان ايه اونچي کي خانديم دربارے علائم قیامت بود و وقوع قیامت بود. حال می‌خانیم بعد از اینکه قیامت برپا میشه و انسان ها از قبرشون حشر میشوند، از قبر بر می خیزند بلند میشوند. الله تعالی می‌فرماید، اونجا که از هر امتی، از هر گروهی برای حساب و کتاب ما می میکنیم، اونجا انسان ها همه با هم دیگه بصورت گروه گروه بصورت جماعت جماعت به اون محلی و به اون مکانی که سزاوارشون هست و جایشون هست برده می شوند و یوم نحشر من کل امت فوجا زمانی که ما حشر میکنیم جمع میکنیم از هر امتی از هر گروهی فوجا دسته ای را ممن و بایاتی نا از های که تکذیب میکردند می آیات ما را اونایی که ایمان نداشتند اونایی که قیامت را قبول نداشتند اونایی که توحید را قبول نداشتند همه را نداشتند جمع میکنیم فهم یوزعون یوزعون به معنی توضیح و تقسیم هم میاد به معنی بازداشتن هم میاد هر دو یکی میشه فهم یوزعون یعنی اونها بازداشته میشن تا دیگران با آنها ملحق میشن یعنی یک گروهی که به سوی جهنم برده میشه اینجا حبس میشه بعضی یوزعون را گفتن یحبسون نگه داشته میشه تا گروه دوم بیاد با اونها ملحق بشه و اینها گروه گروه دسته دسته جماعت جماعت به سمت جهنم برده می شه فهم وقتی که می رواند بر لبه جهنم قرار می گیرند و جهنم را می بینند جوش و خروشش را مشاهده می کنند عذاب را می بینند حتی اذا جاؤو حتی وقتی که می آیند در موقف حساب می آیند قال أَكَذَّبْتُمْ بِآیَاتِ می گوید بِنها اللہ می گوید یا فرشده آیا شما تکذیب کردید آیات من را اللہ می آیات من را تکذیب کردید آیاتی که درباره قیامت بود در تویید توحید بود تکذیب کردید وَلَمْ تُحِیتُ بها علما یعنی تکذیب شما بر اساس احاطی علمی نبود بر اساس علم و دانش نبود بلکه تکذیب شما بادی و رعی بود چطور طور بود؟ بادی و رای بود بدون علم بدون دانش تفسیر مدارک نوشتی قالا اکذبتم با آیاتی بادی و من غیر فکر ولا نظر شما تکذیب کردی بدون فکر و نظر من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم يعني برأساس دانش باشد برأساس علم باشد همين طور تكذيب کرديد أكذبتم بآياتي ولم تحييتوا بها علما ونظر علمي إحاطية علمي نداشتيد اطلاعاتي نداشتيد أجل جهل تكذيب کرديد أما ذا كنتم تعملون و علاوه از تکذیب دیگه چی کارهایی کردید چی اعمالی انجام دادید انسان وقتی که قیامت را تکذیب بکند و قیامت را قبول نکند دیگه هیچ عملی برای او اهمیتی ندارد هر چی که دلش بخواد انجام بده اما وقتی که به قیامت اعتقاد داشته باشد خب اعمالش حساب شده هست هر عملی که احساس بکنه در قیامت حساب کتاب میشه اون عمل رو انجام نمی ده تمام بیبندوباری ها تمام فساد ها تمام اعمال زشت در واقع دلیلشون اینه که این افراد به قیامت اعتقاد ندارند لذا وقتی که قیامت را اعتقاد نداشتید اما زا کنتم تعملون دیگه چی کردید، دید چی کار انجام دادید الله تعالی می فرماید و وقع القول عليهم بما ظلموا حل قول بر اونها واقع میشه مراد از قول چی قول عذاب بما ظلموا به سبب ظلمشان یعنی بما اشرکوا فی الدنیا تفسیر جلالین نوشته به سبب شرک و عذاب دیگه بر اونها واقع میشه فهم لا ينتقون انها جواب معقولی ندارند نطق نمی کنند سخن نمیگویند یعنی چی؟ یعنی جواب غانه کننده اونها در مقابل این ملامتی که اونها میشوند نخواهند داشت لذا الله تعالی بعد از اینکه احوال قیامت را و احوال بعد از حشر را بیان فرمودند اینجا دلیل اقلی بر اثبات توحید و همچنین بر اثبات قیامت ذکر میفرمایده آلمی راو آن نا جعلنا اللیل ليسكنو فيه و النهار مبصراء آيانمی جعلنا الليل ما قرار شبرا شبرا مزلما شبرا خدا چی قرار قرار تار سکون داشته باشند، آرامش داشته باشند، به آرامی بگذرانند. سیاهی شب و تاریکی شب برای آرامش انسانها هست، این نعمتی هست. و نهار مبصره و نمی بینان که ما روز را مبصر قرار دادیم. مبصر یعنی موجب به بصرت، دید، مجبور رویت همه جا رمی بینند تا لتنشروفی یا لتکتسبو فی کسب کنید منتشر بیشید اینه فی ذالک لآیات اللی قومی یؤمنون در ان وقوع شب و روز گاهی شب میاد گاهی روز بید آیات و نشانات زیادی هست برای قومی که ایمان می آورن برای مستفیدین من آیات و یوم یونفقه فی السور خداون تخویف اخروی باید می فرماید بعد از بیان آیات روزی که سور دمیده میشه ففازع من فی السماوات و من فی الارض وحشت زده میشه تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند. ببینید سور که دمیده میشه چند تا تعبیر هست یکی که سور دمیده میشه همه وحشت زده میشن یکی اینکه سور دمیده میشه فساعقه سعق یا نیچه؟ بیهوش میشن همه اهل زمین و آسان چی میشوند؟ بیهوش میشوند یکی این که سور دمیده میشه همه میمیرند یکی این که سور دمیده میشه همه بلند میشن زنده میشن فیضا هم قیامون مگه چند تا سور داریم بر اساس همین تعبیرات بعضی میگن چند سور را اعتقاد دارن بعضی حتی چهار تا سور فضع سور سعق، سور موت، سور نشت اما بعضی معتقدن نه تا سور هستند اول سور دمیده میشه انسان بیهوش میشه بعدا سور دمیده میشه از امون بیهوشی میمیره بعدا سور دمیده میشه انسان دوباره زنده میشه اما حقیقتش اینه واقعیتی که دو تا سور هستند. از اکثر آیات معلوم میشه که سور دو تا هستند. یکی سور اول و یکی سور دوم دو هست. وقتی که دو تا سور هستند، پس این فزع و سع اینا نام ببینید این مراحل مختلف انسان است. وقتی که اسرافیل سور میدمد فوت میکند انسان اول وحشت زده میشه وحشتش چنان زیاد میشه که بعدم بیهوش میشه و در همون بیهوشی میمیره بس این یکی شد چی؟ اول وحشت زده میشه از بس وحشتش زیاده بیهوش میشه و بعد از بیهوش شده چی؟ میمیره پس این سوری اول است ستا مرحله داره که هر کسی این سه مرحله را میگزراند سور دفم که زده میشه فا اذا هم قیامون همه بلند میشن و اطراف خودشون را نگاه میکنن چه خبر شد از قبرها زنده میشوند پس این دو سور هست می میفرماید و یوم یونفخو فی السور روزی که سور دمیده میشه ففضع من فی السماوات و من فی الارد وحشت زده میشه تمام اونهایی که در آسمانها و زمین هستند الا من شاء الله مگر اونی که خدا بخاط و فرشتگان و کسانی که متولیه انکار هستند اونهایی که از قبل میدونند آمادگی اشترا دارند اونها وحشت زده نمیشن چون اینجا بحث حیوانات نیست من فی السماوات ورده وَكُلُّنْ اَتَوهُ دَاخِرِينَ همه پیش خدا می آیند داخرین یعنی تابع آجز اصل داخر زلیل را میگن منظور همه با عجز و با فروتنی در بارگاه اللہ عز حاضر می شوند وَتَرَ الجبال تَحْسَبُهَا جَامِدَةً اون وقت که سور دمیده می تمام عالم درهم برهم می میشه بینی کوهارا که می, کو می پنداری تحسبھا جامدہ جامد یعنی بی حرکت فکر میکنین کو بی حرکت در حالی که نہ اون در حال حرکت ہے وہی اتمرر مر السحاب کو میرے مثل رفتن ابر قبل از ان کہ برت قبلا چی میشه تبدیل بخ از کنم ریگ میشه پودر میشه و غباری مثل ابر ازو بلند میشه و او آهسته آهسته میره سن الله الذي اتقن كل شيء این صنعت الهی هست ساخت پروردگار هست که اتقن كل شيء هر چیزی را محکم و استوار قرار داده الان محکم استوار اون زمان از بین میره انه خبیر به ما تفعلون همان پروردگار خبر دارد به اون چیزی که شما انجام میدید این یکی از شرایط مجازات است مجازات در صورتی کسی بشه که باید از عمل کردش اطلاعی باشه کسی که نسبت به او قاضی هیچ اطلاعاتی نداره حق نداره او را حبس کنه و زندان بکنه خداوند که مجازات می فرماید از تمام اعمال ما با خبر است من جاء بالحسنت فله خیر منها حال انجا بشارت الله می فرمه هر کسی با خودش حسن بیارد مراد از حسن انجا توحید است از کجا میگیم توحید چون تفسیر ابن عباس هست لا اله الا الله هر کسی لا اله الا الله بیاری حسن اصلش اینه ایمان لا اله الا الله فله خیر منها پس برای او خیر هست از آن یعنی از آن روز در اون روز برایش حمیش خیر هست و برایش خبرهای خوش هست احوال خوب هست و هم من فضعی یوم اذن آمنون اونها از وحشت اون روز ایمن هستند هیچ لا يحزنهم الفضع الاکبر اون وحشت بزرگ اونها را نارات نمی کنه. چون دلش قرص ایمان تو دلش هست حمایت و پشتیبانی خدا هست ملائکه او هم را هم رای میکنن و هر جا او را اسلیمیدن تسکیمیدند لذا وهم فزئ من فزئ يومئذ امنوا اما ومن جا بالسيئه هر کسی سیئه بیاره مراد سیئه عمل سیئه اینجا نیست مراد سیئه شرک اونجا حسنه توحید اینجا مراد سیئه شرک هر کسی که با خود شرک بیاره هر کسی که با خودش اعتقاد شرکی داشته باشه دیگران را با خداوند در صفات یا در عبادت شریک می دوند فا کبت هم فی النار چهر به چهره و به سر انداخته میشه در آتش کب سر نگوندین میگن به دهن انداختن میگن. حل تجزونه إلا ما کنتم تعملون اونجا بهشون گفته میشه شما پاداش داده نمی شوید. و جزا داده نمی شوید. مگر آنچه که عمل می کردید لذا إن وزيئت وإن شرائط شرائط آخرت است كإنسان هاد در آخرت دوچاري انجرف تاريوشا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إن دليل وحي است بصورة النتيجة والسمرية إن دلائل قزشته است أي به این انسان ها بگو وظیفه‌ای که به من محول شده با توجه به این دلایل با توجه به قدرت خدای عزوجل این که انما امرت ان اعبد رب هذه البلد جوزنی نیست که من امر شدم من دستور داده شدم به من دستور رسیده از جانب رب العالمین ان اعبد رب هذه البلد اینکه من عبادت کنم رب این شهر را یعنی شهر مکه الذي حرمه اون ذاتی که این شهر را حرام قرار داد حرم است شکارش حرامه علفهایش علف، علف را قد کردن حرامه درختهایش را شکستن حرامه ولهو کلو شئی اون ذاتی که تمام چیز برای او هست تمام اختیارات تمام تصرفات به من دستور رسیده فقط او را پرستش کنم غیر او کسی را پرستش نکرم و امرتو ان اکون من المسلمین و من دستور دادشم که از مسلمین باشم عقیدتا و عملا یعنی کاملا تسلیم پروردگار بشم و ان اتلو القرآن و همچنین به من دستور رسیده که من قرآن بخوانم قرآن تلاوت کنم برای هدایت شما برای ایمان شما که شما ایمان بیاورید لذا قرآن من میخانم دستور ربم را اجرا میکنم فمن احتدا فا انما احتدیل نفسه اینو شما بدونید هر کسی از شما هدایت شد اون هدایت شده برای خودش یعنی نفش را سودش را خودش میبرد من ضل و هر کسی گمراه شد فقل انما انا من المنظرین من کارم را کردم کار من انزار بود کار من ترساندن شما بود من شما را ترساندم و قل الحمدلله سيريكم آیاتی در پایان سوره بعد از این همه چار داستان خدا بیان فرمود دلائل مختلفی شما در اول این جز دید از همه اینها نتیجه میگریم الحمدلله یعنی هرچی صفتی صفتی خوبه اون صفتی که علوهیت را اثبات میکنه اون صفات اختصاص به الله دارند یعنی معبود فقط او هست سیوریکم ان قریب شما را نشان می ده علاماتش را منظور از علامات و آیات چیه؟ علامات قیامت است. یعنی این علامات قیامت که الان شما خان دید دابت الارض هست و علامات دیگر نفخی صور هست دیری نخواد پاید. و نخواهد رسید که خدا به شما نشان میده آیاتش را فتعرفونها اون وقت شما میشنسید اون آیات را میاد اون آیات هم میاد اما اون وقت ایمان آوردن فایده نداره وما ربکا به غافلین اما تعملون رب تو غافل از اون چیزی که مردم عمل میکنند نیست بله. او سوره مبارکه نامل که در این سوره چهار تا داستان شما خواندید. از این داستان ثابت شد که متصرف هم فقط خدای عز است مدیریت این جهان به دست الله تعالی است و آلم الغیب هم خدای عز است